سه ماه بعد از انتخابات مجلس، دو هفته بعد از سانه هوایی برای رئیس جمهور و در سانه انتخابات ریاست جمهوری، درباره موضوعات مهم کشور با علی اکبر پور گفتگو کردم. از اون درباره پشت پرده رقابت ها در انتخابات مجلس پرسیدم. ماجرای های مالی مساف، ماجرای اتهاماتی که در هول و انتخابات مصرش شد. ماجرای سانه هوایی رئیس جمهور چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ بازیگران بین المللی چه منفعتی از حوادث بعد از این اتفاق داشتن در انتخابات ریاست جمهوری چقدر گذشت با ما در این گفتگو همراه باشید سلام خیلی خوش آمدید به خبر فوری. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز راستش این شرایط خاصی در کشور هستیم که یکم یک به نظرم اوضاع برای بخش از افکار عمومی دست کم گیج کننده است بویژه این شرایط بعد از حادثه‌ای که برای رئیس جمهور اتفاق افتاد تشدید شده. خیلی هم می‌پرسن که دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ شرایط به چه سمتی داره میره و چطور میشه که در یک حادثه رئیس جمهور کشور، وزیر خارجه و جمع دیگر از همکاران به شهادت میرسن؟ این شرایط رو شما چطور می‌بینید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض می‌کنم، اولا واقعاً شرایط جهانی یه جوریه انگار رون داره به سمت فرسایشی شدن پیش میره. من یه چیز کلی دارم یه همچین اتمسفری رو تلقی ازش دارم خب یعنی انگار هیچ طرفی طرف پیروزیه نیست. واقعا در حال یک توازن جدیدی داره در دنیا شکل میگیره گیره و میدونید وقتی موازنه های قدیمی میخواد به هم بخوره. ام فرسایشی شکل میگیره بالاخره تقلاهای صورت میگیره برای اینکه افرادی ایده گروهای جریان‌های قدرت‌های میخوان جایگاه قبلی رو دست ندن به ایده میخوان جایگاه جدیدو به دست بیارن این امر فضای کل دنیاست خب مثلا شما در روسیه و اوکراین هم همین این طرف ماجرا در داخل از چند بود این ماجرا واقعا قابل بررسیه من خیلی صبوری کردم هیچی نگفتم این واقعا ارزو می‌کنم چون شرایط کشور رو خیلی خاص میدیدم چون میدیدم بعضی از های توطئه داره مطرح میشه تو کار اسرائیل بوده کار کی بوده کار کی میتونسته اصلا باشه من همینا رو بررسی میکنم حالا ارزم می‌کنم یه بخشش اصلا من فارغ از اینکه کار چه کسی بوده این اتفاق بوده یا مثلا یا حادثه بوده یا عملیتی روسی یا هر چیزی قصد و نیتی باشه بود قصور بوده یا تقصیر کوتاهی بوده یا عمد ببینید من فعلا پیش اول رو میذارم برای این که نایه بوده واقعا این پذیرفتنی نیستش که شخص دوم کشور بعد این اتفاق براش بیفته و تمهیداتی اندیشده نشده باشه خیلی اتفاقات بدی افتاد و موقع یعنی این هل... کسایی که این کار بودن من باشون تماس گرفتم با چندین خلبان ما صحبت خودم به شخص صحبت کرد خلبانای ارتش، سپاه، نمیدونم خلبانه که حالا توی فضای نظامی نیستن. خب برای اونها هم سوال بود یعنی بود برای خودشون که خب آخه چطور ممکنه همچین اتفاقی. یعنی اون هلیکوپتری دیگه دستگاه فرستنده ای نداره، جی پی نداره که خیلی حرف ها هست یا صحبت تو گفته میشد که مثلا نمیدونم این فرسوده بوده، نمیدونم خلاق اینا نداشت. خب یعنی هلیکوپتر بدی نبوده، این هلیکوپتر خوبی بوده. این خلبان خلبان خوبی بوده. رهبر انقلاب برهه با این هلیکوپتر رو با همین خلبان این طرف و اون طرف رفتن خیلی از مسئولین رئیس مجلس و قالیباف غیره کسی همراه قالیباف 50 بار با همین هلیکوپتر میگفتن 40 50 بار پریدم به خود من داش میگفت گفت میگف. خیلی این خلبان آدم من مدلم اینج میرم خوب تحقیق میکنم که مطمئن شم میگفت من خیلی آدم دقیقی بود و حساسی بود گفت شب از سیستان بلوچستان ما میخواستیم اینا رو از کدوم شهر به ساوهدان بریم کجا بریم و هوا تاریکیه شو نپرید گفت من نمیتونم تو این هوا بپرمونم. والله خورده عجیبه دیگه. واقعا یک بار یک نفر بیاد درخواست خواهی کنه، یک بار یک نفر بیاد پیگیری بکنه. همیشه فضای کشور احساسی میشه. ما چند تا مسئولمون رو به تو این دست بدیم. ببین تو همون منطقه تقریبا ما یه بزرگوری از دست دادیم شهید کاظمی که اگر بود به نظر من قطع به یقینا فرمانده سپاه خب یعنی واقعا نبود شهید کازمی یک زایه است برای کسایی که با ایشون آشنا بودن میدونن شو یه آدم نخبه معنی واقعی کلمه متقی یه پاستار به ما و پاستار یعنی پاسداری که باید باشد ایشون بود توی سانه هوایی تو اون منطقه مثلا آمد تحقیقشان دیدم روی جی پی اس‌م روی نقشه در دروردن فاصله زیادی نداشت نه 50 60 کیلومتر چقد خدمت عرض که چند بار از این اتفاق بعد بیفته پس این اول واقعا باید پیگیری کمیته حقیقت‌یاب گوزشته بشه گزارش درست و سریح به مردم بدن ترس. یه آقا قصور صورت گرفت این چهار نفر مقصرن بعد این دیگه حساب کار دست را یه بیاد آقا شوخی بردار نیست خیلی وقتی اصلا شما این شخصیت میگه من میخوام این کار بکنم نمیپذیرن یه آقا شما خودت که نیستی که شما سرمایه یه کشوری یه کشور کلی خزینه میکنه یک فردی به یه پختگی میرسه به یه تجربه میرسه حالا میخواد بازدهی داشته باشه آه این میشه 20 ساعت تو گشورم اصلا دنبال رسوم رو گردن من معتقدم تعداد افرادی که در دنیا آمدن در مرسمیشون حضور پیدا کردن پیام دادن خیلی بیشتر از اون چیزی بود که تصور میشد این واقعیت ها و من اصلا با گیراشت سیاسی آقا کار ندارم چرا دو تا دلیل اصلی داشت یکی خلقه ایشون بود یعنی ایشون آدم خوشخلقه بود کسایی که باش ارتباط داشتن میدونستن بسیار صاف ساده خالص پیچیدگی نداشت کاراکترشون اهل دروغ گفتن و رندی و این چیزا نبود درست. راحت سریع حرفشون نمیزد خب تو این جلسه در بریکس داشتن شانک های و نمیدونم خدمت مثلا سازمان ملل با خیلی از این رؤسای کشور دنیا مراز. یه شخصی شده آره، مثلا میگفتن اور فرند مای فرند خب همچه حرفی میزدن خب بعضی از اینا اومدن فقط سه ساعت تو ایران باهمون بعد رفتن دوباره یعنی فقط برای همین کار من یا هند یک روز اعضای عمومی این دلیلش اینه که شخصیت ایشون بود یکی ای دیگه هم به عبدالعوت وعده صادق مم. این عملیاتی که ما علی رژیم سرکشی انجام دادیم در پاسخ به جنایت اونها در خاک کنسولگری ما که خاک کشور ما محسوب میشه بنده معتقدم اسکیل کشور رو و رتبه کشور رو از منطقی به جهانی ارتقاد داد. دیگه ایران رو مادری قدرت جهانی می‌بینن نه منطقی قبلا منطقی بودیم. کسی نمیتونست مشکل مسئله منطقه رو بدون نظر ایران حل کن تو بسیار از این گفتگوهایی که در مورد سوریه شد گرفت جای دیگه, دیگه. شد، عمدن ایرانو حس می‌کردن. اما کارشون پنله می‌شد. بعد هم می اومدن پشت پرده میبستن میگفتن جورو رسانه ها لاقل نگیم بعد مجبور شدن ایرانم بیارن خب یه شخصی مثل مرحوم آی امیر عبداللهیان خب ایشون آدم پرکاری بود و این اتفاق که شما دها ده موشن و پهوات روانه فلسطین اشخالی بکنید دیگه این رتبه و سعت ایران آورد به سعت جهانی این جاییه که تو دهن کشور که اتمی میزنه و محکم وای میسته میگه من بودم زدم به ایران. چون میدید سه چهار تا سیناریو بود برای زدن یکی این بود که از خاک کشورهای مقاومت حمله صورت بگیره منطقه نه کلمست همین کردان داره صورت میگیره هر روز همزمان با یه که بفهمونی که کار ماست دوم این بود که نه از داخل ما بزنیم ما موشک های ما باشه منطقه از بیرون مرز همون از دریا بزنیم و از خاک کشور از محور مقاومت سومیشون که ما میزنیم خودمونم هم میزنیم از خاک خودمونم هم میزنیم پر تعداد میزنیم از جای مختلف کشورم هم میزنیم میگیم ما هم بودیم خبرم داشته باشید که همین سومی به اتفاق آرا و اجماع انتخاب شد و رهبر قلابم هم اینو دیدن و دستور دادن تعدادش رو بیشتر کنید تعداد این جنگ افزارایی که میخواد استفاده کنه موشک‌ها و پهپادها رو بیشتر بکن و این نقل و هم که پخش شد توسطون بخش رسانه دفتریشون که یک شعریشون گفته مثلا نه ترسونم این هم اثار رو به نازو اجده ها این شعر مال خودشونه خب اینو خطاب به آیه سلامیشون میخونن و میگن برید انجام بدید و بعد این دیگه ایرانو دنیا به ما چند وقت قبلش با پاکستان یه قصه داری نظام داشتیم اتمی و بعدش رژیم خب رژیم سینوستی یعنی چی؟ یعنی که دیگه ایران به این مرحله رسیده که بازارنگ کسی جرئت نروش دست بزنه و تمام در واقع توان امریکا، انگلیس، فرانسه، اردن، کشورهای عربی هم اومدن فقط دفاع کنن که موشکو با جایی که باید میخوابید خوابید خب طرائی طرائی دقیق بود از تاکسی، تاکتیکی خیلی دقیق بود اینا اسکیل ایران برد بالا حالا فارس بعد این اتفاق حالا یه ماجوری اینجوری رخ داده ماجرا واقعا عجیب غریب اینجور یه خواب بود من انتظاری چی شد یعنی من ساعت 1:30 ساعته اونم دو بود اشتباه نکنم یکی از مسئولی با من تماس گرفت که হেলিকপ্টرشون رو رادار بحف شده غیب شده گفتیم یعنی چی من با رسور ارتباطی که با دوستی که با جای آله رحمت الله علیه داشتیم زنگ زدیم اون طرفو دفتر ایشونو خب یه سری اخباریتون واقعا اینجوری اتفاقاتی افتاده پیگیری بعد دیگه آرومان کشید به رسانه‌ها تو رسانه‌ها رسید و حالا منتظر خب خوب ساعت‌ها طول کشید آخرشم پهبادها خودم پیدا کرد مهلو. بعد من نمیدونم مثلا این چه کار اشتباهی بود که این طور کار بازی داد. آره بیاری اونا آخرم شش کیلومتر اختلاف پیدا بکنم. بعد در فضایی که ما قدرت واقعا جزء های اول دنیا تو از پهبادیم و اینو به دنیا نشون دادیم، اصلا میگن سلاح‌های ایران مشکوک پهبادشون خودشون دارن میگن. بعد یهوهوی بمثلن ترکیه که خیلی سعی می کرد و ماجره جنگ ارمنستان و آذربایجان پود بر رقدار خودش رو معرفی کنه این طرف تو جنگ اوکراین و روسیه پاد شاده ما درخشید بود موازنه و هم زده بود یه بریم مثلا یک ت اونم با کلی شو بیاد و موقع برگشتم رو وان خودشون یه ماه و هلال و ستاره پرچم ترکیه درست بکنه یهدههای مینی اینا монтاش کارم هستن یعنی خودشون که چیزی ندارن به اون معنی اما خب این خیلی بده دونشان اینا چین دارن این رو میگیره چرا هیچ اینا رو نمیتون پیداشون بکنیم این خیلی بده اینو من فرضو بر این میذارم آید دکتر که اصلا یه حادثه رخ داده خب خب بده و باید پیگیری بشه رئیس جمهور کشور بوده برامرزی بر میخواد چه می‌دونم تمهیدات امنیتی چه چه چه اون بگید حالا یه پیش‌فرضی اگر عمدی بوده باشد چه شما شما اینو بپرسید بس بید. من میگم اولا بدونید که صحنه استاد دوست دارن الکی بگن کار ما بوده ببین شما دیدید یه سری های فیک مرتبط با موساد هم دارن الکی میگن اینم حالا واقعی یا الکی میگن بعضیشم تکذیب شده که آقا این مثلا ترور آلارم این مال موساد نمیدونن مال چیه فلان اینا وان ادعا کردن که آقا مثلا کار ما بوده همین چیزیه کد دادن که مثلا انکار کردن خب بزرگ اداست دیگه خب میخواد بگه که آ... یه گندگی اصطلاحا بکنه دیگه خوش میخواد بزرگ کنه این به نفع اوناست نباید مینا دامن زد مم. اما میگه شما پیش برزين عمرتون میکنين میفرماد که اگر واقعا یه کسی نقش داشته باشه چیه من ای خورده این خورده میخوام این پلان و این نقشه رو از بالاتر ببینیم من معتقدم این در واقع برندگان و بازندگان احسن. این اتفاق من... زینافان رو بیاین بررسی کاره خیلی زینافدارین شما داخلی و خارجی خوش. داخلی خارج. خب داخلیش که مطلقا تمایلی ندارم بررسی بکنم حرف زنم رو بشه اما خارجی ببینون یکی از ویژگی های دولت آقای رئیسی که راه بردش و تپس بشه اینی که ببین ما چلو پنج سال از استعمار فاصله گرفتیم و مستقلیم تو دنیا مستقلیم نه شرقی نه غربی همه دیدن شوروی آمریکا با هم جنگ داشتن سر زدن ما تو ماجرای جنگ با عراق با هم متحد شده بودن ب... به عراق کمک می‌کردن اما استعمار پنهان بود عمل کرده برخی از دولت ها بعضا برخی از مسئولین متاسفانه به نفع برخی از کشورها تمامی شد مثلا توزه اقتصاد بله مثلا ما در دولت قبل در دولت روحانی رسمن انگار بریتانیا ها اینجا اومده بود دفتر زده بود به چه معنی ببینید شیش،, شیش ماه هش ماه چقدر ما چین سی و هفت اصد اقتصاد هم باش درگیر بود سفیر نداشتیم شیجنگ با یه بسته 150 میلیارد دلاری سرمایه گذاری آمد ایران. تحقیرش کردیم تو بحث چابهار چجوری عمل کردیم. شرکت های چینی که انداختیم بیرون از بخش نفت و گازمون. یعنی یه پیام که آقا ما داریم این سمت غرب با برجام رو می خواهیم کنیم. گروه پدرش ما شرقی ها. ببینید این روی کرد بده دیگه. دولت های رئیسی اینج من میگم اگر آشکارش که 45 سال درسته پنهانش هم پس زد یعنی چی همزمان که ما عضو بریکس و شانگهای میشیم شرق باز اون روسیه حرف مفت میزنه جوابشو محکم میگیره از همین دولت میگیره از وزیر خارجه همین دولت من یادم میاد امیر عبداللهمو بعضی‌ها دیگه میگفتن شما خیلی تون جواب دادی لازم نبود اینجوری جواب بدی شما محکم و گفت نه بی خود کردن اینجوری حرف زدن در مورد استقلال کشور ما که سحق ندخه خجسته دکن و مذاکرات با امریکایی هم پیش می بود های باغری رو محکم داشت میشه می حتی موجب سری ناراحتی های با بین ایشون و برخی از دوستان قدیمی ایشون شده بود خب اینا مردم نمیدونن. اما محکم داشت پیش کار به یه نقطه رسیده مثلا ما دیدیم دلار قیمتش داره برمیگرده دارم یه پایین یه سری اخباری داشت می من. حالا اینجا اون به اصل ماجرا می رسیم. که چیه؟ بایدن به این مذاکرات و نتیجه مذاکرات نیازمند تخوبت. نتخط خودشون. و میدونه بدون این جلوی ترامپ اوزش خیلی سخته کارش خیلی سخته از طرف دیگه ما میدونیم. عرب ها دنبال بازیاش ترامپن. ترک ها از جمهوری آذربایجان گرفته تا عثمانیه دنبال بازیاش ترامپن. روسیه دنبال بازیاش ترامپه. یعنی بازگشت ترامپ برای خیلی از رژیم سینیوسی همی طور. خیلی از این کشورها آمدن ترامپ بر اینا مطلوبه حالا کلید این بازگشت و عدم بازگشت در دست یه بازیگر جدید بین المللی و غیر منطقی بوده قبلا هم ایران منطقه بود بین المللی داشته اما این دفعه دیگه واقعا این بازیگری که تو سطح بین‌المللی دلشو نشون میده و سطح جهانی داره کنشگری میکنه اون هم ایران یعنی ببینید روس‌ها راضی، ها راضی. خب یه خورده فضا چیز میشه دیگه مشکوک میشه. سفری کهشون لب مرز با جمهوری آذربایجان دارن. خب میتونه از اون حیث فقط بررسی بشه. ام. خب، سینوسی‌ها راضی، عربها راضی که آقای این یه وقفه ای در این کار فقط بازی به با هم بخوره. بازی به با هم بخوره، مذاکرات به هم بخوره. ببینید هر بار ما با خواستیم مسائل مونو با آمریکا نه که بگم کامل حل کنیم. از یک مخاصمه وحشتناک رو در روی 180 درجه رو, رو هم دیگه یکم زاویه کمترشه. مثل انگلیس تو همه پدر گیه که آمریکا نقشش انگلیس هم نقش داشت اما میبینید انگلیس اونجوری روبرو رو نیست که آمریکا هست سفیرش میاد بله سفارت خونه داره خب درسته من الان منظورم نیستش بریم اون سفارت خونه بیا و راهی فلان اما هر بار خواسته این اتفاق بیفته یک جریاناتی در امریکا و در ایران خروش کرد که من مثال ده هفتاد بارها زدم که تو در هفتاد ببینید مادنربر وقتی ظور خارج میشه که از پیگیری های مسرران ها مجدانهشون همین سا... کاهش سطح تنش به ایران آمرا یه رو هم کرد بابت قاای زمینی بابت کدت تو 20 ممرات میکنه این جربی ها و این منافقین و میذاره تو لیست تروریستی بر تو لیست ترسی قرار گرفتگه بعد به رژیم سیونسی فشار میرن که کرانه باختری و شرکسازی رو متوقف کنه برگرده چه اتفاق میفته؟ گیوه تو ایران قتلای زنجیری عجیب قریب شکل میگیره تو آمریکا ماجرای مونیکا لیونسکیب اتفاق میفته و... و کلینتون متهم میشه ببین این خط قیرمز سهیونست هست که از راه برده که هیچ وقت روابط ایران با دنیا اصلاح نشه این ما انقلابیم خیلی از چه چونم بینندگان شما بارو با آدم انقلابی انقلابیش آدم تون در تا بشتستم. خب اما این انقلابی بودن یعنی یه موازه ای داریم سر استقلال کشورمون مطلقا اهل کرنش نیستیم. بارو خودم علیه روسا چینی بالا پایین رو توییت زدم. کردم. تعارف ندارم. ما سفر با برخی دوستان افتادیم چین؟ انقدر من بینا انتقاد کرده بودم این روز آخر خدا شاهد مسئول میز خواهرمی ها بود اشتباه نکنم من این هز بود بعد جواب منو نمیداد دوست نداشت به من صحبت کنه من میفهمیدم مترجم صدا میگوشیم مثلا این بگو جوابا منو نمیداد یعنی بهش برخورده بود خب که سر جای خودش اما این دلیل نمیشه که فکر کنیم مثلا ما خودمون بی خود در یک دشمنی های هزینزای بی خودی فرو ببریم نه میبینین اینو صهیونیستا اینقدر کثیفن جنایاتی که دارن تو دنیا انجام می‌ده کل مردم دنیا فهمیدن که این ها حق داشتن و با دم هم ایرانیا غرب یه عقده تو تمام این دلها مونده بود که ایران اینو یه خورده خنک کرد تا حدی حد همه برای یه هم میگم یه بخشی که اینجوری میام اعلامه چیز می‌کنم دقیقاً بفهمید در ماجرای شهادت ایشون و همراهانشون آمریکایی‌ها موضعشون چی بود صهیونیستا آمریکایی‌ها شماطت می‌کردن که شما چرا اعلام تسلیحت آره تسلیت گفتی نمیدونم یا حتی رسانه هاشون نزدن به اون معنی که صهیونیست‌ها داشتن خوشحالی باید. میکردن و فلان معنی داره یعنی خود آمریکا فهمید این قدی سرطانی و معنی واقعی کلمه مزره داره آسیب رسانیش بیشتر از سود رسانیش میشه کل دنیا فهمیدن اینو و این جنایتی که اینا انجام دادن من تو این فضا تحلیل میکنم یعنی مم. تو یه نگاه بالاتر و جهانی نبود آقای رئیسی به نفع خیلی ها از این کشورها بود به نفع یک جمله بخوام بگیم به نفع ترامپیستا بود به دلیل اینکه سطح تنش ایران داشت با این کشورها کم با همسایه ها کاهش دادیشون ببین به محض اینکه با عربستان رابطه اصلاح کرد شروع کرد با کشورهای همسایه ارتباط گرفتن با غربی ها همین طور ببین آیه امیرعبداللهیان دائم در سفر بود هم شرقی ها هم غربی ها این درست نه شرقی ها حق دارن در عمور ما دخالت کنن نه غربی ها ما هم تو اقتصادمون رو یه ششور مستقلیم دوست داریم با هر کسی رابطه داشته باشیم با هر هم دوست نداریم رابطه داشتیم به خودمون ربط داره به هیچ که ربط نداره خب این توعمان داشت انجامی شما قبلش اینجوری نداشتیم شرق و غرب با هم ببینید چقدر به بود آ ایران چون عضو اف ای تی اف نیست نمیدونم روسا قبول نمی کنن عضو بریکس بشیم چینی‌ها قبول نمی کنن عضو شانگهای بشیم چی شد پس شدیم چرا مشخص نیست شرف عارف بود همزمان این دو رو با همیشون پیش برد برام میگه اون روی کرده دولت وقت صحبت روی کرده میشه آقا میگن سادستی نمیدونم چه چه چه که ما میدونیم کلانش اینه استقلال به معنی واقعی کلمه و شما می بینید که اینا بعد جوری عمل کرد که این شرق و غرب به رقابت بیفتن بر سر شما مم. نه اینکه خیالشون وقتی راحت بشه بگم ببین اینا یه طرف که تو بازی نیست احسان پس ما هم براش ناز کنیم کاری که وقتی نتیجه برجام و روسا و چینی ها دیدن دیدن و افتاده دست ترامپ کار گفتن اون که باج بده نیست به اینا حالا ما خب باید ما هم چیز می گیریم میریم نفت ارزون ما اینو می اونو میخوایم. همین نکته به شما بگیم. دو تا بحث راهن معدوم داریم. راهن اینچه برون گرمسار و راهن رشت و ساره. من خودم در اماد رشت و ساره صحبت کردم ببنم. بعد از کلی تحقیقات دارم به شما میگم این دو تا راهن به نفع بیشتر از ما به نفع روس هاست. آقا روسیه دارم و روسها دارم وام بیدن فلا میدن بسم الله بیان باف قادرست کنم. من نمیخوام وقت جلسه طولانی میشه وارد به دیتیل میتونم وارد این دو بحث بشم که اصلا چه بلایی سر استان گیلان ما میاره این طرف هم هیچ حسنی بر ما نخواهد داشت خب ایده تو داخل شدید دنبال بسردم من میدونم باز زدن اینا شروع میشه چرا چون پیمانکاران پیمانکارا پول دارن پول دارا رسانه میخرن آقا یه کلیپ پول میدی پخش میکنه شبکوشتم من کاری داره خود یه رسانید طوری رسانتون تبلیغات نداری؟ بله. برشو تبلیغات میفرسم یا آقایین تو کانالاتون بذارید. بعضی ما این تبلیغاتتون صحبت یه نفره. بعضی ما خبر از یک نفر جزینه. فزلی رسانه اینه دیگه. بلد. خب درسته. چی میشه یه یک کلیپ اینجوری وایرال میشه. اه. همه میگذارن از کانال طرفداران پرسپولیس ما زمان درگیرون با اینهای قالیباف همینجوری شده بودی از کانال طرفداران پرسپولیس تا اون که قیمت ارز میده در مورد ما مطلب میرفت. هم خب ما این پول نداشتیم <laughs> از این استاپ خرجو بکنیم خب. اما اونا میکردن چی... چرا؟ چون کسی که پول داره میتونه این کار انجام بده خیلی اینا, اینا بدونیم ما تو کشورمون متاسفانه پیمان کارها پروژه برای خودشون تعریف میکنن یعنی طرف یه دستگاه تی بی ام داره پروژه تونل تعریف میکنه طرف تو کار آسفالت پروژه راه تعریف میکنه تو کار راهن و ریل احسن برای دکشمان خودشون بود. دور این چیز رو گذشت از کارهایی که ما تو مجلس خواهیم کرد مخالفت با این طرها و رسوا کردن اینها و گزارش به مردم. فعلا مردمی خورده صبر کنن فضای کشور استیبل بشه. الان کلی اتفاق همین الان توی دو روز از مجلس گذشته کلی قصه و داستان رو داشتیم. ما هم بلد بودیم بهترین وقت بود ما چه اینا رو بگیریم. درسته کسی که دنبال تنش باشه میگه آ دیدی ما چتونو گرفتیم چرا ما کاری نکردیم؟ میگه ولش الان کشور یه قوه رئیس نداره یه قوه رئیسش تغییر پیدا کرده و متزلزل آمده با خاطر اینکه باز خودش هم میاد بر ریاست جمهوری احتمال بسیار زیاد من نمیانو دوستان که این فیلم ما رو میبینن من برداشم که فرداشون بیاد خب و اینا قصه هایی که بالاخره بازی سیاسیه خب اگر بیاد بر ریاست جمهوری باز اون یکی قوه به این شرت کشور سیبر نیست الان بعد یه خورده مثل مادری که بچهش میگذره زیر شمشیر قصه گفت بچه نصفش کنیم آره, آره مادر اون ولش میکنه آره. یه بحثی اینجا وجود داره و اون این که بالاخره کشور خارجی تو این تصویر بزرگتر شما میبینید میدونن که عملا رهبری به نوعی سیاست خارجی و این بله. مذاکرات تو این سطح رو مدیریت میکنه اما اراده دولت مهمه بسیار مهمه رهبری همون رهبری دولت های روحانی هم هست. این سیاست خارجی ما تغییر نکرد. یاغی تغییر کرد. تو اون دولت درس کردم ما نمیتونیم تو یونان کاگریکس بشیم تو این دولت میتونیم. چرا؟ چی فرق کرده؟ رهبری که در جاشه. اراده تو دولت خوب اجرا حساسیتو از کار دست ایناست. ببین شما اینه این که مثلا چه میدونم به شاید مغازه میگه آقا برو مثلا یه چیزی به بیار. خب نخواد بخره نمیخره. <تص> گم کردم بسته بود نمیدونم فلا اذیت میکنه کسی کم به خود کار انجام بده میدو میره شما کلا میخواین میره با سر طرف برمی داره میاره واقعیت حالا در مورد آ صحبت شد شما هم انتقاداتی به دولت آ رئیسی داشتید به هر حال ممکنه بعضی از منتقدینی که حالا احتمالا این گفتگو می میبینن این بحث رو مطرح بکنن که خب ما هم مثل شما ما هم انتقاداتی به داشتیم مم. نمیتونیم در اون دست بندی مثلا زین افعان یا به نوعی اونهایی که حالا شاید در پنهان خوشحال باشن از این اتفاق تلق قرار بگیریم اون انتقادات تکلیفش چیه؟ ببینید یکی از ایراداتی که حالا تمام شد دولتشون از یه جهتی یعنی چون حضورشون نیست خب واقعیتش اینه که من نب دنبال اینم که سازی بکنم ام. زلمه به کسی بکنم در مورد تمام آدم ها همجوری میبینم خب اینکه نقد نقده به دولت این بود که اون راه برد جهانی و تو لایه بالا به لایه‌های های که میرسید کمرنگ تر میشهد یعنی همون بخشی نگری و اینو باز جدید آره نمید مثلا ما دو گروه دو جریان تو دولت داشتیم مم. یه جریان جریان امام صادقی ها بود خب راسه یه دنیای دیگه یه اتمسفر دیگه دنیای خودشونو داشتن یه جریان هم جریان این چه بود که حالا نگاه لیبرال تر داشتن ماجرا خب اینا تفاوت بود دیگه مثلا جو تو وزارت reform مثلا شما آیه عبدالملکی دارید با یک نگاه در مورد حقوق کارگران بعد یه عزیز دیگه ای رو دارید با یه نگاه یک سال بعدش با یه نگاه 180 درجه مقابلش در مورد مثلا حقوق کارگران م. حقوق به معنی چمون حداقل دستموز نه حقوق حق ها خب خدمتتون عرض بکنم که این جزء مواردی بود که باید در دولت حل میشد و خب بدونید که دولت بینچ هم رسیده بود یعنی شاید ایشون اگر یکی دو ماه دیگه زنده می بودن چندین نفر تغییر میکرد که اخبارش حداقل تو جلسات خصوصی در پیچیده بود که مثلا فلان آدم داره تغییر میکنه به همان آدم داره تغییر میکنه این ها ایشون یه خلقی داشت دنبال تنش نبود خیلی جاهایشون اذیت کردن یا آدم تحمیل کردن افرادی رو تحمیل کردن بیشون که اصلا با مهلش نبود منطقه ایشون میگفتش که من میخوام یه پیامی به جامعه بدم که من چون خیلی چترش باز بودیشون رقبای انتخاباتی خودشون برداشت در دو دولتش خب خیلی از این کسایی که به عنوان وزیر آقای زرقمی و شرکت کرده بود. آقای امیرحسین قاضی زاده زاده شرکت کرده بود. اینورا برای تو دولت خودش. بعضی از اینا اصلاً اصلاً به هم نمیخورن یعنی مم. جمع از داد میشه. آره جمعید. یه جاهایی خب شاید یه جهرتی یه خورد کلاش شد ماجرا. از این یعنی... نچسب بود قصه. این بخشی بود که خود ما مسئله ماجراهای من خودم نقد داشتم یا در ماجرا راهبردهای اقتصادی راهبردها خیلی مهمه. بالاخره شما نگفتون در مورد سیاست تسبیت چیه؟ در مورد نمیدونم خدمت شما عرض بکنم در مورد حداقل دستموزها چیه؟ در مورد اینو باید مشخص بشه. ببینید در داخل ادعای واقعا دیوانه‌م بودن که شلون تگدوره کنن. این تحلیل نیست این خبره این خبره. فهم کنید میتونستم. قرار بود این یک سال آینده که تا ریاست جمهوری داریم یعنی درست شرط عادی پیش میرفت بلای بر سر ایشون و دولت بیارن که اون سرش ناپیدا به واسه جهش قیمت ارز و آه، کارشکنی آه. همه چی کارشکنی اخیراً یکی از روحانیون کلیپ ازش اومده بیرون که جلسی با مرحومای رئیسی داشتن بهشون میگه که وقتی بهشون گفتیم خب چرا این جنس رقم کالا مثلا گرون شد اینکه دیگه دست خود دولته یه ایشون گفتش که خب این فشار مجلس بود دو ما خب چرا نمیرون به مردم بگیه گفت مردم کل رو حاکمیت رو میبینن یعنی فضای ایشون این بود یعنی واقعا اینو متلق خدمت رو میگم یعنی واقعا خون به دلشون کردن خیلی عذیت میکردن نه ببینید فضای مجلس فضایی بود که دوست داشتنی یا همچین چیزی در بیده توش حالا بعضی خیلی ا همراهی نمیکرده اما شما برید ببین روی کرده مرکز پژوهش چی بود کاری مرکز پژوهش‌های مجلس با دولت رئیسی داشت میکرد که مرکز پجوهش های لاری احمدی نجات کرد سه هم مجال و خیلی کارشکنی ها از نظر بنده خیلی به جوری بخوام بگم فساد نمایی خب این هم الزامن نه یه موقعی شما میگی ناکارآمد طرف یه موقعی نه و دنبال اینی که چیزی پیدا کنم خب نمونه ها فراوان داره من بخوام مثال بزنم اون تو عرض کردم نمیخوام راجع این چون سیره این بزرگوارم همین بود که اینا بهش پرداخته من به عنوان کسی که خودم 26 هفته کارگروه دارم و حداقل شما انر ما حاضر شدید و بالا دکوری که اونجا شما دارید می‌بینید و این دکوری که ما الان اینجا حسین کردید بود داره هنر خب ایشون دارم می‌نما ما مویت کاملا سبزی سبز کرومکیه آره آره خب برنامه آره ما خبرپرسیه آره خدمت شما هست کنم یعنی شما دیدید دیگه دفتر دسته که ما شاید. ما از حد اقلها بیشتر امکانات بده این کارگورای کار میکردیم یا دکتر ثقاب اصفهانی در تحول دولت با دکتر مروی در حکرانی شریف و اینها کار میکردن موارد متعدد اینها جنگی داشتن اون مجلس برام هفتم توسعه جنگ داشتن سر خیلی چیزا خب شما فرض موردی بوده که های رئیس خب خیلی آدم نرم خویی بود یعنی توند خونه و دل جدل و دعوا و از رویشون جنگ جویه شونی کار به جای رسید خوب اینی که دارم میام شاهد این جلسه کلاه های دکتر ثقاب سانی از معاونین دولت دیگه معاونان مگه مگه تحولتون چو این اندیشکده زیر نظر که ایشون کار به جای رسید که در یکی از ماجراها چون میرسه حق مردمه که جلی خیلی از مسئولین ایشون مثلا کووید روی میز گفت به ولای علی من اینو انجام نمیدم یه مال اواخره قانونی بود که مجلس گذاشته بود اما تشخیصشون من, م... من نابود میشم مردم خب یه فضایی که یه سه از اون دوستستش چه چهار بیان به ریاست دیگه حالا زودتر مییم حالا دیگه رسید به بحث انتخابات من برمیگردم به موضوع حالا مصوف و بحث مجلس در مورد انتخابات حالا ما اشاره فرمودیده داریم زمانی صحبت میکنیم که هنوز خیلی این چینش کاندیداها مشخص نیست، ثبت و سبت ناما تکمیل نشده. به هر حال جریانات مختلفی حاضرند و بنظر می‌رسه که کشم بالا و یکم عجیبی از کاندیداها را شایدی. ما شایدیم ما قبلا در ادوار قبل چیزی که دست کم من تو ذهنم هست اینه که آدمایی می اومدن، های عادی خب تعداد زیاد و تعداد نخبگانی که ثبت نام منظور از نخبگان سوابق اجرایی مشخص و شناخته شده محدود بود حالا تا حدی. اما این بار به نظرم اتفاقا اون جریانی که مردم عادی بودن نیستن حالا مثلا اون پیرمرد روستایی که خان ماجرا کم شده <تصفيق> باره اما اون بخشی که بالاخره نمایندگان ادوار وزرای سابق خیلی این تعداد بالاست و آدم میمونه که یعنی اینقدر شکاف تحلیل منه که زیاده که انگار من اون کسی که تو مجلس کنارم میشه سنم قبول ندارم، اون میاد منم هم میام همه میام بازی یکی دیگه میام هم همیزه های دکتور متفاوت هست هم. آره همین ماجراش چیه چرا اینجوری همه احساس میکنن یه عده میان که بیفتن سر زبونها یعنی اینا هم همون شوخی بیش نبیریدشون نیم خواه متبخترانم خب بعد یعنی اینقدر قد فقر که حتما شما بعد کانال رسانه اون چیزی این عکسو دارید این تصویر چند تا روشت تی... میکروفونه آره 2 تا 3 بعد خب میره اونجا قرار بگیری مم. در معرض قرار بگیری. آفلانی هم آمد در اخبار نه ادمه خب یکی به من گفتش که شما نمیخوای بری شرکت کنی بعد گفتم خب داری با شوخی میکنی خب لا چه نمیری گفتم که گفتم یقینا نمیرم و چرا گفتم که متوهم نیستن خب ببینید اسکیل کار ریاست جمهوری به کجا چی در خودتون شما می‌بینید بردا مربوط به که باورتون میشه میتونید برید اونجا رو اینم از فواز جمهوری اسلامی بوده دیگه مثلا در نفس اول بود بالا مصطفی ناخود یه دنا واقعا بر همینه یعنی میان تو اخبار دیده شده آره چند وقتی خبری ازشون نیست یوی میان دیده میشن دوباره. یعنی به لازه روانشناختی اینگار تحت فشارن که خیلی از این شد. پدیده های دکتر زیستیه م. خیلی خیلی خیلی از مسئله ما باید زیستی ببینیم م. آدمن مغز دارن انگیزه دارن هورمون دارن نه تو تارف نداریم خب <تصفح> این اوله یک عده میان و میدونم را راحت میشن برای چی میان؟ اینکه اون پیام مظلومیت مزلومی... به مردم بدم ببینید آها من به دلیل تعلق به این جریان سیاسی رد شدم رقیب ما رقیب من شورای نگهبان است میترسن از من تاییدم کنن خب یک عده پوششی هن. میان مثل کسی تو مجلس میرفت مخالف ثبت نام میکردن که جای یه مخالف واقعی رو بگیرن کسی حرف نزنه یه فیزون بالا داره چرت و تحویل ملت میده خب بعد میگن چه مخالفتی کردن اونم خب. خب. بعد پایین یادمه خاطرتون باشه مثلا معمولا موقع این آره. کابینه میخواد انتخاب بشه آره. این خیلی پررنگه یه روش دیگه یه دیدی همین جوری میان هم. پوششی عمل میکنن خب یه دیم هم تو خودشون نمیبینن دیگه یعنی برداشتشون اینه که میتونن مشکلات کشور رو بدون حل بکنن بختش واقعا دغدغه دارن یعنی درصش اینه خب اما خب بیان من الان این دفعه رو فکر میکنم نمیدونم الان شورای نگه چطور میخواد برخورد بکنه اما فکر کنم شبیه یه چیزی بین 84 و 92 بشه من برداشتم اینه که بین 84 تعداد کارون ندیده ها زیاد آره. مبود این خاطرتون باشه 90 دو هم اونجوری نبود اما خب کمتر بودم برای بین این دوتا من فکر میکنم بشه برای همین... و یک وزنه سنگینی هم نداشه کاندیدایی نداره. که بله. اجماعی روش بله باشه بله و خیلی رأی سلبی ای بسا اثرش بیشتره یعنی درست. وقتی رأی سلبی اثر داره من الان بخوام سه گروه کنم کاندیدا ها رو میگم لیبرالا جریان لیبرال تیفه ها حالا نمیتونی واقعا یک کسی بین انقلابیا خب حالا همه خوشون انقلابی میدونن اما اون چیزی مردم چهششون ندید هیچ این وسط آقا این که وسط لافن خب اینو این وسطی‌ها هیچ‌کدوم رأی نداره وقتی رأی سلبی میشه چرا چون این به این رأی نمیده که عاشقش بشه الزاماً به این رأی میده که این یکی رأی نیره وقتی اینجوری میشه دو قطبی میشه اون کسی که وسط رأی نخواهد آورد چهره چهره‌های میانه از این جهت رأی نخواهند یعنی شما فرض بکنی مثلا انقلابی استاده میخواد بین لاریجانی و جلیلی گیر کرده به کی رعی میده به قالیباف رعی میده یا به جلیلی یقیناً به جلیلی انقلابیه رعی و گلد و رشته. حالی یه آدمی که لیبرال داره این وسط استاده برین امانده اصلاح طلبا و قالیباف بکی میده بازم اون امانده اصلاح طلبا خب من برداشتم اینه 84 دور اول خیلی ریا قومیتی شد یعنی تبریز و آذربایجان شرقی غربی اردبیل مهرعلی اول بود کرمان و آره کرمان فکر یا گیلان مثلا کرمان و گیلان آقای هاشمی اول بود دور اول بیشتر نشد مازندران لاریجانی بود بنا آملیه لاریجانیان دیگه ام. حالا این دفعه تو مازندران رای نمیداره خراسان شمالی و رزوی قالیباف زاگ رسنشین ها تا پایین تا تورمزگان کروبی رأی اولا احمدی نجاد هم تهران سمنان خراسان جنوبی یعنی این کبیر مرکزی مم. اینا که تو ذهنمه سیستان و بلوچستان اهل سنت هم اصلاح طلب بالاتری داشتن همیشه مؤین رأی آورد ببینید اولگوی قومیتی مشهوده مم. نمیشه ندیش بعید نیست این اتفاق مثلا هم فرض کن آیه بیاد زاگرس نشین‌ها بهشون رأی بدن امه. یعنی لورا بهشون رای بدن تو دور دوم احمدینژاد اینجوری نشد دیگه ای میشکنه یه کار کرد دیگه. آره دیگه. میشکنه برای همون استدلالی که خانم راهنورد اصلاحات خیلی سست و بی خودی بود که آیه داماد لورا مثلا داماد خودشون رو بریم میکنه؟ اینا وقتی دوغتش میشه، اصلا معنا نداره کاملا بهم میره خب و این هم نشون میده که اینجا یه کشور ایران ملیت دارن سال هاست ایران ایرانه این خیلی مهمه این جو دیده میشه کم که من فکر میکنم سال 92 آی تو مشهد رای اول نبود چیزی که حالا من تو زهنم هست بله. همینطوره خب در مجموع آیه روحانی رای بیشتری آورد اگه اشتباه نکنم به استثنای آی چیز فکر میکنم رضایی که توی همین بخش زاگروسیش ها رعیش بیشتر الان یه مسئله این, این طرفه یه متغیر باید لحاظ بکنیم <تصفيق> یه متغیری دینه که چه کسی دولت رو نمایندگی میکنه ببینید یه نظر که اله گشوده شد دولت‌های رئیسی رو... <تصفيق> بله خب این <تصفيق> مسیر خدمت های رئیسی رو دوست داشتن مردم دیدن بس... یک روز یک جا نبود من <تصفيق> خدا همش این طرف ماده. آخرم تو خدمت شهید شد میبینید میان همین, تر... همین مسیر دوم پیدا کردن ما ببینیم یه نفر داره بر ما زحمت میکشه این کسی که نمایندگی کنه دولت رو هم فرد مهمی میشه یعنی یه بخش هم اونجوری رای خواهند لذا لزوما من اینه ما کلی رأی 4 5 میلیونی داریم آه. از 2 میلیون تا 6 میلیون مثلا پس احتمالاً دور, دور دوم میره بعد دور دوم که بره دیگه مجبورن اجماع صورت بگیره یک کاش مثلا یه کسی می بود مثل خدای رئیسی دور قبل میتونه خاصیت جمع‌کنندگی داشت میتونست بگه آقای زرگامیتو هم اومدی حالا رد شدی بر ریاستج اما خب تو دیدی که بسم رو تو بیا وزیر فلانی تو حالا واقعا آدم که کارآمدی هم داشته باشن خب این حالت ایدئال میشد باشه و این هم بگم فراموش نکنم من به مردم عزیز بگم خواهشن اینکه به آینده هم فکر کنید کسی که میخوا بیاره بعد با بخشای دیگه این کشور همکاری کرد ما بلایی که لاریجانی احمدی نژاد آورد دو سال آخرشو فراموش نکردیم. همین آقای علی لاریجانی جنگ جهانی شن دو هم دیگه این اومد فیلم داداش آره فیلم داداش. اونو برداشت پخش کرد و فاضل رو پخش کرد و اومد گفت و منم بگم داداشت اونجا چیا میگفت اصلا این شد مد کودک شده بود انگار خب ببین نخوان با هم کار بکنن شما نمیتونی ازشون کار کسی که نخوادی این انگیزه ها خیلی ما مای داید برای میگم مسئال زیستی مهمه روانی مهمه دو سال من یادم مثلا ا چهار بارفه اشتباه نکنم وزیر نفت کاندی دا آشته دیگه سر وزیر کار دیگه مثلا صدای رهبری هم درد که بابا اینو دیگه چرا مثل نظرده خ ب خدا آ شهخال اصلاح داشتهبانه خب اگر اینجوری بشه چی؟ فراموش نکنیم بعضی موقع اون آدم ایدئال که خیلی خوبه من خودم بیدیم میگم دنبال اسلحه بعد بریم تو مجلسا هم دنبال همه اما دیگه شما تو آدم خیر ال باید انتخاب بکنید دیگه شما این موقع اصلا چه اگه خود نویس باشه خب بهتر از این خودکاره مم. اما میگه خب بخوام میخوام بخوام بنویسم شکسته این مداده مثلا نیوردم بنویسم دیگه یعنی بین آرمانگرایی و اون واقع بینی باید جمع کرد مم. یه جای بعد بیه پایین نمیشه من بگم آقا من روی آرمان ها محکم وای می‌میسم به جهنم حالا جهنم که راهی نبردم میرم ای نداره جهنم راهی نبردی باشه من هم همین نفس میزنم خب اما تش چی میشه کشور نابود میشه مم. کشور دو دستی تقدیم کنید به یه جریاناتی که پدر مملکت تو سابقه شون هست قبلا دروردن خب خطر دیگه ای کاش اینا خودشون بتونن با هم بشینن یک از که من این ایام خیلی پیگیری کردم حالا بعد از انتخابات اسم میبره حالا فعلا اسم نبرم از بزرگان انقلاب آوردیم باهوش صحبت کردیم گفتم آقا شما بیا بزرگتری کن بیاد بشینید اینا رو جمع بکنید خب که اینا پوشمندانه و با تراحی بیون جلو بعد دوستم گفتم تو این انتخابات ریاست جمهوری خیلی ازت خبری نیست چون واقعا وقت نداشتم <laughs> فکر می‌کردید یه سال وقت دارید دیگه آره اصلا شما نگاه کن من توییت میذارم ساعت 2 3 هست چرا تا جلساتم تموم بشه که آقا یه نفر که خاصیت جمع کنن نگی داشته باشه بتونیه چترش باز باشه واقع این حالت ایداله که همه گروه ها و کسایی که بالاخره رعی دارن تو این کشور نماینده دارن بیان با همه کابینه تشکیل بدن آره درسته شاید بگیر این کولاج میشه اینا راه برداشون با همیگر راه برد را اگه راه برد درست انتخاب بشه ام. خب میشه اینجوری هم نیستش. حالا د... بس به اینجا رسید نمیخواستم این سالو کنم چون خودتون اشاره کردید یه نقدی به شما و حالا فرمودید تو حوض انقلابیگری شما رو گایی رو میدوند یه نقدی وارده و اون که امسال شما در گذشته ساختارهای ریش سفیدی جریان اصولگرا رو اینقدر هدف نقد قرار دادید که امروز دیگه این ساختارو کار نمی کنن. یعنی فکر نمی‌کنید بعضی وقتا به عقب که برمی گردید فکر نمی‌کنید مثلا شاید باید کم‌تر می می‌شد شاید باید یه جاهای تشکل‌های ری هایی به رسمیت شناخته می‌شد که الان به قول شما به شعب ابس ایجاد کرد ببینید من اگر به نه انتقاد ببرم که فقط به ناظر همین به انتخاباته چون من قبل از این انتخابات یعنی مجلس خب کاری خیلی و نداشتم یعنی چهار سال گذشته یعنی مجلس 98 من کمال همکاری رو کردم. من اسم ببرم خدمتتون عرض بکنم که چون بعضی از این رو من اسم برم بعدن تو همین جریان مجلس اسپورتون ناراحت شده بودم گفتم خب, خب چرا اسم ما رو بردی گفتم من خواستم مستند حرف بزنم من چون آدم سریح و شفافی هم باکی ندارم حرف میزنم گفتم شما کار بدی که نکردید مثلا واسطه شدید مم. خب این که اشکالی نداره که یعنی آدم خوبی بودید دیگه ببینید من واقعا این دورم نمیخواستم توی مجلس کنشگری داشته باشم اصلا خب اما اخباری که به من رسیدم خب ظاهرا ریش سفیدا خودشون نمیخوان شغله رو روادت کنن ببین من نگران یه بدعت بودم باید انتخاب میکردم بین اینکه این بدعت شک بگیره و تبدیل بشه به روند ببین 1400 500 نفر جوان غیر جوان اکثران جوان اومدن رفتم وارد ساز و شورای ائتلاف شدم درست خدمت شما عرض می‌کنم چون برنامه بدن فلامه و سازوکارهای موازی رو تعطیل کردن ام. یه تایمی بره تبلیغ داره دیگه بنده خدا آدمه از... یه نفر آدمه چهار نفر ادمه کوناکش میکنن سازوکارهای موازی رو تعطیل کردن رفتن تو این چه قرار گرفتن خب من خبر داشتم دقیقا چه اتفاقی دارم اول چند نفر انتخاب شدن بعد از اون چند نفر چه سوالاتی پرسیده میشه اون افرادت که دارن سوال چه جوریه حالا نمیتونم ببرم چون بین اونا دیگه طرف میشه شمبرون زل روشن دیگه خب چون اون وریا اصلا رحم ندارن توی خب واقعا میگم و یعنی خیلی بد برخورد میکنه با این بندگان خدا خدمتتون عرض بکنم که فقط و فقط و فقط و فقط یک نفر رو من بگید اون لیست سی نفره بود و از اون سازوکار ما دور از از اون 1400 نفر من برای مریض لازم دارم اینو ببینید یعنی فقط نهایی هیچ کدوم یعنی شما یک کنکوری می‌ذاری اما از اوت. غیر داوطلب. آریک. همه رو برداری بیاری م. این یعنی چیه ببین چهار سال قبل شبیه این کارو انجامه اونها این سازوکارو درست کردن. خب؟ تو این سازوکار گفتن رأی میدین فلان. آقا چی شد؟ مجتبی ثابتی شد اولاً. خود قالیباف پیشنهاد رو برد. تو اون سازوکار. آقای Ники مَلیکی رأی برد. آقای علی جعفری مثلا اینو رأی دادن. آقای قالیباف زت زیره میش. اون نمیشه که. لکوموتیف منم من احتمالاً رای دارم من قرار سرلیست باشم خودم با من قبول ندارم من به مردم قول اقتصادی دادن فلان زد زیره میزه. یه دین آر ریخ بیرون خب اینا خب کینه کردن ازش <تصفيق> <تصفيق> ناراحت بودن گفتن آقا یه سازوکار یا ریال گوش با این وجود عده چشم بشیدن <تصفيق> بلاخره ایشون یه میلیون دی بیست زارتم رای داشون موقع نفر دوم که آقا تهرانی بود 800 هزار تا چهارصد هزار تا تفاوت این دفعه ما گفتیم که دیگه درست میشه دیگه این دفعه ما هم برطرف طرف میکنم بهتر میشه ببین من آدم واقع بینیم آرمانگیرا هستم اما میگم بالاخره اولین تجربه شون بود خرب کاری کردن حالا نفره ما درستش بود درست گردن همدان یه دو تا لاخ ابرو بردارن دارن چشو از بیخ کشیدن بیرون رودرمه تو چش کشیدن بیرون <تصفيق> خیلی صحنه دارکی شد خب <تصفيق> واقعا این کارو کردن میگم یک نفر شما معرف کن مصاحباش سوری ببینید مثال میزم یه دکی نماینده مجلس بودن رفتن تو هشت نفر که پایدارین میبرم تو لیست پس اون چیه اون اون کنکوره برای چیه آه. درست شد یادت مدیران معروف هن. بابا اینو من که نمیگم آقا پورمحمد مصاحبه کرده اگه بنده گفته بودن شما بد بگید آقا پورمحمدی مصاحبه کرد آقا پورمحمدی میگه با من گفتم شما هیچ کار نداشته باش فقط پیشساب تا انجام بده باشه بی تو لیستی میگه مری روزه سالن دعوت کردن مصاحبه خودشونه بلان شد اومد رفتیم سالن تا همه کار رو انجام دادن خب ایشون هم مصاحبه شده آقا خجاستم مصاحبه شده یه سری مدیرای هن نظامن... خب ایشون بردن یه دنم که سهمیه یه سری افراد بزنن مثلا یه سری همشری های قالب افتوده یه سری کادر مجلس بودن م... کارمند مرکز پژوهش ها و محبی رو بردا بیاریم آقای بابک نگهداری مرکز پژوهش شاه پاشو بیا آقای اهدیان رسانه ای پاشو بیا کارمندای مجلسو برید ثبت نام کنید این باید مجلس کامل بگیریم مگه تو رئیس مجلس نبودی تو قبلیه بودم اما مجلس من نبوده مم. چرا؟ چون ببینید رکش بهتون بذار بگیم سریح مردم نمیخوام من انتخابات ریاست جمهوری رو خیلی تحت خودش خودشاده قرار بدم خیلی دارم ملاحظه میکنم اینا رو من بعدا عمری باقی باشه بگذره براتون باز میکنم که چه ها گذشت ببینید آهی قالی واف 96 اومد رسا رس جمهوری رئیسی اومد رئیس 98 اول قالب اومد مجلس که من میام رئیس مجلس میشم دو سال کار میکنم میام برای ریاست جمهوری برای همین انقدر رو قبول کرد اومد چیزی رو قبول میکنم که کسایی یه قرارو برام انجام بدن اینو من نمیگم بعضی از اعضای مجلسو گفتن خب گفتن بعضی از آقایون همون موقع اینجوری شد قبول کردن به که خودش بیاد یه دایره رئیس شما سبت نام کرد آي رئیس شما سبت نام کرد چرا نام کرد دعوت شد از دیگه ایش رئیس قوه قضاییه بود. موفق هم بود تو قوه قضاییه. کی ازش دعوت کرد؟ 220 نوانده مجلس. خاطرتون هست نارو. بر هم قالیباف و مشاورینش اساساً مجلسو میگفتن. مجلس. میگفتن مجلس مجلس ما نیست. همون موقع بهترین کار این بود که قالیباف نمیرف رفت مجلس بشه. قالیباف در یوسفرس نمیخوره. قالیباف همون موقع میرفت معاون اول و 28 شورای رییسی یا ادم اجرایی. چو میکردن؟ بهش پیشنهاد شده بود نمیدونم بالاخره آقا شما برو معاون اول باش یه این طرف رئیس مجلس، هرتون لطفه. آقا گویا 1404 یقینا برای ریاست جمهوری می‌خواست بیاد. ما میخواست یعنی تو دوره اول با آی رئیسی رقیب شه. این خیلی مهمه. گفتن شما اگه بخوای بری دولت رو بگیری، دو تا پیشور زره دیگه. قبلش باید مجلسو چیده باشی. آره. درست شد. کابینه هم آفرین. دو تو سال آخر یه حال اساسی به دولت داده باشی این اون بخش ایکس ماجره فکر کنیم سر نشست خب و همین روی کرد پیش رفت الان با این حادثه که اتفاق افتاد چه شد همین اتفاق افتاد اول آقای قالباف اومد ملیس رو چیت چون رئیس مجلس یاد رئیس رو میل خوش بچینه حالا برم تو دولت منطقه کال ماجره دیگه کمتر. و زمان کمتر یک سال چرا چون دو تا تفاوت یکی ما سر کلامون پیدا شد اون سازو کار خراب کردیم ایشون تقریبا هیچ کس نتونست ماجرا بس ببر دیگه یعنی شما الان تهران یه نگاه بکنید چند نفر آورده بودن لیست گذاشته بود چه فکر که با 17 18 نفر میره تو عملا مشترکای لیستا نه اصلا قالیبافی نیستند حتی روح الامینی هم بیشتر آدم های رضاییه. خب قالبوا قالبافی نیست. شاید به هم راه بده و اعلام بکنه. اما خب ایشون آدم های رضایی. های مالک شریعتی نزدیک با آیه زاکانی تعریف میشه. چهرهای پایداری چه چرا بتو با قالب گفتن؟ اینا سایه هم تا دو ماه قبل انتخابات با تیر می‌زدن. طرفداراشم توی شبکه‌های اجتماعی چه جوری کنشگری میکردن پس هیچی. تک و تنها رفت. یه میلیون و 2000 شد چقدر؟ 400000 مشارکت کمتر شد خیر مشارکت با مشارکت 4 سال پیش یعنی 1402 با 98 یه درصد فرقش یک دو درصد فرق خیلی مهم نیست اما رای ایشون از 1200000 تومان به 400000 تومان پس این مجلس ناقص گفت ارسی اینا گفتن فضا فضا جوری شده فضایی که همه چی ناتمام انگار رو میخواد می هیچ کدوم به تکامل انگار نمی رسه خب بعد الان هم همین فضل دارمه. الان کاندیاری یاد سایت جمهوری هم همین شکل من یه با زور برگردنم عقبتر پس هایی قالیقاف ببینید 96 میخواسته بیاد نمیشه 98 میاد مجلس رو بگیره که تو دو سال بعدش 2400 محکم بیاد نشد آی رئیسی اومد گفت دیگه 1400 چار میام خب این اتفاقی تو مجلس افتاد این بعد پیامو 20... نمیده که شما نمید حالا من روز مجلس حرف بزنم خب 1404 رو یه نگاهی بکنیم برای برای برای مجلس, بره بره مجلس. بره. خب یه دِیپس ها کارمندا باشید بیاید آقا مثلا فرض کنید یکی از کاندیدای خانم رئیس دفتر زن آقای قالیباف بوده رئیس دفتر خانم آقای قالیباف بوده ایشون تو لیست یا مثلا ببینید یه رای میشه در شورای ائتلاف شهر ری خب چندین نفر رای میره میرم یکی 100 خردی رای داره یکی 60 70 تا رای داره این تحتیه یکی چهار تا رای داره این کیه این داماد رئیس شورای ائتلاف شعریه یه دونه خودش به خودش رای داده یه دونه پدر خانمش بهش شش. رای داده دو تا یکم دو تا دیگه اونجا در حدی که و خردی رای هستا ببین چند نفر رای دادن درست شد کدوم رو انتخاب بد بشه؟ یا اولی یا دومی دو دیگه من سومی این آخری انتخاب میشه میره توی لیست خب کم چند وقت پیش ایشون اومده بود توییت زده بود نمک ریخته بود در مورد بنده خب من جوابش همینجوری دادم گفتم در من شما این لیست این عکس لیست و فلان یا تو سازوکاری اگر کسی میرفت کنار باید آیه پیرهادی می اومد جایگزین میشد محسن پیرهادی خب، تو تیم آیه قالیباف بود اما آیه قالیباف بهشون به تنش خورد سر ماجرای شهرداری زاکانی شوت پرتش کرد بیو یعنی اینو ساز سازو کار بدای پیرادمی و جایگزینی میشد افتاد بیرو یعنی اینو همرا هم شما تو همین ماجرام میبینیم مثلا ممکنه مم. تخلفات تو شهرستان‌ها به خصوص مثلا فردی و حالا به قول شما مم. ما اون بخشی که تمرکز داریم تهرانه. اها آه. تو... اونجا میگه دیگه نمیشه تو تهران شما نگاه کنید من تو شهرستان وارد میشم شهرستان به خود وارد میشه خب مثال‌هایی دارم تو شهرستان‌ها اما همین جا رو شما نگم چه اتفاقی افتاده چه شلم شوربایی یعنی قالیباف یه آدم اجرایی قویه من هیچگاه باعث نمیشه که مثلا انتقادم به یک فردی در یک موضوع باعث بشه مثلا بخشه نه اما این سوال شما این بود شما فرمودید که شما یه سری از این بزرگانه میخوام میگم آره. اینا اینجوری بزرگتری کردن و یعنی شما اینها رو دیدید بارده ماجرای بلد بلد بلد. و و منصفانه من فقط یه چند تا سوال پرسیدیم کدوم که از افشاگری ها من انجام دادم ما فقط در مورد اون ترافلا گفتم چی آیا اون نام محرمانه بود نه چه کسافت کاری اینو کردن سر ها؟ اعداد مخدوش جعلی باز دروغ بود اصلا عدد درست نبود تو خب بگردش بعد بیای بعد بری مثلا چی توی سایت مشرق نیوز مثلا بیاد بزنه خب آه مردم که نمیدونن که مشرق نیوز سپاهه اولا من صحت سپاه و مقدس تر از این میدونم که وارد این بازیها بشه و هرگز این کار کثیف مشرق نیوز رو به حساب سپاه نمیذارم. اینی که یکی از روش‌هایی که این نفر رو ضد میکنن همینه دیگه تو اون نهادهای مقدس حمله میکنن اینا که بیان جواب میدن به اون نهاد مقدس تلقی میشه. خب در مورد خیلی این اتفاق افتاد دیگه نمیخوام اسم ببرم یه روشی اصلا یعنی این رو شما ناراحت که منتشر شد یا اساسا وجود نداشت؟ کجا تو حساب نمیدونم مثلا یه حساب... بار واقعیتش در مورد مسائل مالی منصف با هم صحبت بله. کردیم تو باشید همون عدد بلاخره... من هنوز هم, هنوز هم میگم این صد میلیاردی ای که بالاخره میلیارد و دختره ماویه نه صد میلیارد بوده نه اصلاً چیز موزه که خود اولین که اومه بی رو پخش میکنه میگه صد میلیارد تو گزارش مشرق یو میگه 50 میلیارد همین اول چی شد نیست شد و بر چند سال این یه میگی و پ میلیارددی که کلی حساب های ماسوسسه به خودش بوده به ما بانک صادرات دو تا داریم مثلا ملت دو تا داریم رسالت داریم نمیدونم چی داریم نه هر کدوم ما. اینا هر کدوم مشخصه یکیش حقوق فقط میدیم یکیش برای موکب ارربینه پول جمع کنیم فقط هم با خرج ارربینش حالا فرض بفرمایید ربین پول کم آورده ما از مصاف ارربین قرض میدیدیم مردم ریزریز ریز پول میدن ه هزار تا صد هزار تا دی میلیون میلیون میلین میزنه به اون حساب دوست. شما الان باید یا یه میلیارد تومن چه میدونم اقلام بخری برو اونجا برنج بخری گوشت بخری میخون شام بدی اسپیس بزنی نمیدونم کلی ماشین کرایه کنی برداری بره شما که نمیتونی 5 میلیارد 5 میلیارد می اینو پول بدی ام. که میخوای خریدت بگم پول نیست میچیکار میکنی قرض میکنی ما خیلی از مردم به ما پول قرض میدن بر برمیگردی آقا او اومده طرف چرا این پولها دوباره برگشته تو قرض مردم پسادی <تصفح> <تصفح> بابا پول رو بگیری پس ندی مهم پس بدی که از حسابت خارج شده دوباره مستوزر چیه ما از حساب نگاه کنید مثلا صادرات مل مر... چیز مساف به حساب موکه پول قرض دادیم بعد دوباره این پولی که مردم دادن جمع شده دوباره برگشته این رفت و برگشتو چهار بار حساب کردن ببینید از صادرات خارج شد مثلا یه میلیارد تومان یه بار حسابش کرد وارد ملت شد شد دو تا میلیارد از ملت دوباره سه ماه بعد که پولا جمع شد دو ماه بعد خارج شد. باره که برگشت 4 ملیون رسوب کرد. گردش فراده رسوب. آره شد. یا مثلا میگن آه اینا به حساب پدر یا خواهر خودشون پول زده بودن ماجرا چه استفاده این چایوادیگی چه بعد یه هست. نفر به خود این کارو بکنه ببخشید شما طرف احمق فرض میکنید که مثلا برگرده بیاد با حساب خودش این کار انجام بده. واقعا <تصال> میاد این کار انجام بده. چیه؟ این اولا حساب مؤسسه نیست حساب شخصی برادر منه خب؟ زندگی خودش بله من چون حدس میزادم شما <تصفح> سوالو بپرسید من اینجا آماده دارم. آره دارم سوال بخش شما. بزرگ از مخاطبهای ما برام همونه بله. بله. هرچند انقدر این عدد که گفتن موزه که یکی ای از این دوستان میگاده با یه تو تهران شمال تهران این عددش بزرگتر از این چیز هست. اما چشم ببینید مثلا اینها حساب شخصی افراد هم آورده بودن ام. ببین یه مؤسسه با یه با لیست افراد در کار کار میکنه او دیگه با کسی دیگه کار میکنه که به ما چه ربطی داره میشه ام. لایه دومم آره خیلی کارهای سخیف و زشتی مثلا اسامی افراد تو اینترن خوب خیلی از اینا رفتن شکایت کردن 40 50 نفر تا الان من خبر دارم شن شکایت خب در میاد این بحثا خب همین دیگه ببین رو برای سیستم بانکی کشورمون شما چه انتظار دارید مردم بیان تو بانکای خودم پول نگه دارن چرا مردم آقا مردم پولتون رو طلا نکنید، دلار نکنید، زمین نکنید، بیت کوین نكنید نمیدونم فلان نکنید، ارز دیجیتال کریپتوکارنسی نکنید؟ چ... چرا ها امنیت داره افتاد دستی یه آدم یه دست یه کسی که بازی می کنه چه اجتماعی دسته یه روحانی افتاد که صبح تا شب داره بازی میکن کنه شبکشت میبگه یعنی که جواب اینو بده اونو بلاک کنه نمیدونم فلان کنه یو ای مثلا بعد خیلی جالبه یا بابای میذاشتی یه دو روز این سه روز و عدلی شب انتخابات <تصفح> خب یعنی شکل کار دیگر حداقل رعایت میشه بعد دروغ مثلا ببین دروغ یه ما قصد شما بیان دروغ میگه بیان دروغ داشته یه موقع یه بخشی از ماجرا رو <تصفح> مثلا چیه برادر من تو یه روند کاملا عادی ببین ایشون حالا خدمت شما عرض بکنم. تو الان باز این برادر اومید مرقوم رو دیده بودم گفتن آه رئیس شما برادرش مطالعه حالا ندیده بودید حالا چرا دقیقاً من همون مشغله دارم یه نفر چون برادر منه که نباید معروف بشه که حالا ایشون ارشد رکتوره اتمی منو خود رفت خونه ارشد مدیریت رسانه رفته خونده خب من یه جای مثال می, می گفتم یه بنده خدای من می‌خواست با شهادت شهید احمدی روشن تغییر داد از آی تی رفت برادر خودم بود اما چرا اینها ها والا این ب... نسبت فامیلی با من دارم برشون بد شده تا اینکه خیر خیل برشون بشه حالا ایشون بالا براخره تو حوضه کاری خوش بگی داره خب چه اتفاقی افتاده؟ هیچ فعی محسسه توی روند کاملا عادی آمده کارهای حقوقی و مالی رو ما سپردیم بهشون خب یه حالا ایشون این حساب شخصی داره دیگه ب... ب... یه بخش هم هزو محسس هست داره کار انجام. بل. یه کسی دو قرون کار کرده باشه اینا رو میفهمه اینا کجا تفکیک میشه مثلا فرض بگنید ایشون از خواهر بنده و پدرم پول قرضی گرفته ببینید این مدرکی که خواهر من 75 ملیون توانی 15 هزارتون هاشم پول ساتناه <تصحیح> به حساب ایشون پول میزنه خب حالا من میدم بذارید توی چیز 75 ملیون توان زده بعد ایشون تو پنج فقره تو پنج فقره پنجاه میلیون تن برگردونده مم. یعنی یه بار مثلا چم پنج دو دو ده ده چه می‌دونم 5 تومن داده 10 تومن حالا نمی‌دونم چه برگردونده قرضو بخشیشو برگردونده. شما هم خبر برگردونده 25 <تصفح> مونده 25 مونده اینی که وارد حسابیشون در نگفتن یه تلقی به وجود بردن انگار از پول مؤسسه رفتم پول شخص خودشه تازه هنوز بدهی هم از پدرم خب صد و میلیون تومن پول گرفته خب هفتاد و میلیون تومن برگردونده. اینا این هفتاد و میلیون آورده بودن گفتن هفتاد و میلیون تو چند تو پنج فقره اینا یعنی اینگار که از حساب مؤسسه داشته از مؤسسه نیست اصلا شخصه <تصفيق> این حساب شخص خودش داده اصلا مؤسسه <تصفيق> اصلا نیست ببین اینا جنایت ها جنایت به اطلاعات شخصی مردم رو توی اینترنت. او با شما به چه دینی هستید؟ این چه کار کثیفی بود انجام دادید؟ بعد برای چی؟ برای 570 میلیون تومان؟ او با رقم‌های خیریه های شما 94 506 میلیارد بوده. با دلار 4 تومن که دلار 60 دلار بزنه یعنی در 15 یعنی 750 میلیارد تومان. شما بید چفاف کنید من تا دیتیل آوردم اینجا برشت آوردم تا دیتیل تمام آدم‌ها آدم آوردم اینجا خوب. بیمین چقدر اینا کار سخیف و زشتی انجام بدم یا من اجازه بید پسی این بخشو جمعش بکنیم حالا من توضیح بدم یه بخشی هم اینجاست. جوز من به بچه گفتم حالا که اینجای شد میرد از روزی که این مساف شکل گرفته همه حساب‌ها در می اینا به حسابای رسالت دسترسی نذاشتن بانک رسالت من اونا رو هم میگم خب از ابتدا سال 1390 تمام حساب‌ها همرا شفاف می‌کنم ما یه رسالت 39700 رسالت داریم 39721 تراکنش داشته این دقیقا نشون میده مردم دارن پول می‌رسن 39000 تا تراکنش در جمع کل 1090 شده نه میلیارد دو دویس نود و دو هفتصد و نه هفتصد سه اون سه یه ریال آخرش شها خب یه موکب ملت داریم فقط برای موکبه شیش هزار رو ببخشید ملتمون شست و هفتصی و همونه و دوتا ملت داریم خب. بیست و نه هزار و دوتا تراکنش این چقدر جمع شده تو این از نوت تا الان سیز آه این فقط مال سال 90 است از 90 تا از این روز تا اینتاست. این از نود تا روز شهادت آجای رئیس اینا چرا چون ظهر بود من داشتم ضبطم خواستم انجام بدم دیدم که دوستان زنگ زد من رفتم دیگه حال اون بد شد و دیگه بیخیال شدیم گفتیم ما چی پخش کنیم اصلا دیدم شهاده. نمیشه و فزایی نیستش اصلا ها. چون چون هم بودیم چون این که الی کوفته یوقی غیب شد و من خودم دیگه بود که اتفاق افتاده دیگه ملت ده چلو پنجمون شست و شیش هزار دی بیست و تا ترکانشش. از ن خب که میشه 16ده شون... این... این جمعش میشه 16 تومن به جز بگم صد شونزده... شصت و یک پنج و پنج صد و ریال خب بعدیش صادراتمونه که این بیشترین تراکش رو این داشته خب هفتاد و چهار تومن. از ود ها همه اینا خب 746 487 958 051 این یک عشان دیگه ریاله این چند تا تراکنش بود تقریباً 363436 تا تراکنش از یک 360000 تا تراکنش این عدد وارد شد این اصلی ترین شماره از مؤسسه بود صادرات آخرم صادرات مدرسه است با همه همین شماره صو مو هم همین دیگه اصلا چیز دیگه نداریم خب صادرات مدرسه همونه مدرسه مساف پویندگان خورشید اجازه ندین مساف بذارید ما اینا گوشم پویانندگان خورشید نزدیک 60 دانش آموز داره ما یک ریال پول نمی‌گیریم از این دانش آموز ها فقط بعد نخبه باشن کلن وقفش همه چیش متفاوت با جداست با این شما رسابه یه نفر تماس میامم خب مدرسه تون کمک کنم ما نمی‌تونم تو حساب بزنیم میگم بین حساب بزن آره خب بعد اما بهش قرض دادیم به این مدرسه مثلا یوهی می‌خوسته رهن کنه ما از مساف قرض این دوباره پس گرفتیم. ام. وقتی کمک مردمش جمع شده. این همینه. از این سهم به اون سهم رفت. اینا رب. اینا هم جمع شدن. خیلی آدمای عجیبین. خب؟ بعد در مجموع این صادرات مدرسه 22790 تا رکورد داشت. خب؟ در مجموع من در مورد مدرسه رو بگم ببین از 30 تا دانش آموز از 57 دانش آموزش 30 تا المپیادی داشت. کجا همچین چگالی کشور پیدا میشه بیارن یک پنجت مورد بیارن یعنی موفق بوده بعد کل تراک کنش ها 498779 تراک کنش تراک کنش هم ورودی هم نبت. خروجی از نووت از نووت تا علمه از این شفافتر کدومیه که از این ها حاضر بیان اینجوری به دیتیل بگم من میگم بعد تو مدرسه مثلا خود مدرسه های مشکل داره آقا خیلی از شهرو ما میان یعنی آقا بیاد اینجا مدرسه بزنم میان یعنی پول چرا شهرو ایران است هیچی فقط تهران یه دونه با. تهران یه،, یه دونه دو تا پایه خب برای چی بخاطر که پول نداریم یا خیلی از این آقایون رفتن از اموال بیت ملک مدرسه گرفتن همشون تقریبا گرفتن درسته؟ آیا آي دکتر قالیباف هم بابت مدرسه مدارس بچه‌هاشون در کیش میان توضیح بدن که همین چند روز پیش مندم یاشو سلطانی اومدن توییت زدن من اصلا ذحمت میکنم توضیح بده من توضیح دادم آدم های شما این اطلاعات مردم رو ریختن کفر توییتر من توضیح دارم میدم شما ان به یه روز توضیح بده انقدر شهامت داشته باشید بشین توضیح بدید به دیتیل به عدد به جز دارم میگم یک مورد اینا خلاف باشه اینا ما رسوا میکنم به امیرالمومنین هیچچی ندارن این کارا رو میکنن وای به حال اون که یک ریال بودجه بیت المال این ما گرفته بودیم فول کرده بودیم اگه از این کارا که مرسوم حاکمیتی اصلا داخل حسابات بیاد پیدا کنن دیگه یعنی حتی پروژه‌ای انجام داده بودیم مثلا عددی. اصلا که از ویژگی‌های ماصفین بوده که ما یک طرف به اینا کمک می‌کردیم با مثلا کل کاری که پروژه بوده چی بوده مثلا شهرداری کرمان سفارش داده یه مجسمه حاج قاسم برات بعد دو سال پولمونو داده پدر <تصفح> و هم در <داره> آورد <تصفح> خب همین بوده این شکلیه ببین من یه توضیح بدم کلی از این عددی که تازه دیدید بخش قابل توجهش حساب خودم به خودمونه احا. از سادرات ارز کرم قرض دادیم به مکه بعدم پس گرفتیم بر دقیقاً. یا برای پرداخت بوده پرداخت حقوق بوده زدیم به ملی پرداخت کردیم خب همین عددا که اینا دست زدن یه چیزی رو قبل اینا میگفتن از کجا اینا پول بیت‌المال میآد می... آ این مردم اینا پول میگیرن اینا بودجه میگیرن اینا فاکتور میکنن فلان بیارید دیگه این 400 خورده هزار تا تراکنش چه میده که کاملا مردمیه اعداد هم اینا گیج شده بودن اینقدر 50000 تومان 20000 تومان اضافه بوده هستن تعجب کرده بودن این گفت سوپرمارکته خب <تصفح> برای دانش و وسش همینقدر میرسه از قضا جالب بود مردم دیدم لچ کردن از موقع این کارو کردن همون ایام‌ها رو دیگه ان بیشترم پول خب خدمت شما عرض بکنم من یادم همون موقع که این حرفو زدن دقیقا ما چارونی میلیون تومن کم داشتیم چک داده بودیم برای مدرسه ما الان جا کوچیکه رفتیم یه جای بزرگتر خب باید پول رحم بدیم چیکار میکنیم؟ مثلا حساب مساف مدرسه قرض می‌دیم دوباره برمی‌گرد یا میریم از بیرون قرض می‌گیریم مثلا ارز مثلا یه بانی میشنسی میگیم آقا بر محسسه گیر کردیم یا یکی دو, یک دو توم هم پولر قرض بدی قرض میدیم مثلا توی چار قسمش برمیگردیم تو دو قسمش برمیگردیم همین بند خدایی که ما ازش رفتیم آهن خریدیم بیچارش کردیم <laughs> از خودش باز قرض میگیریم باز به خودش پس میدیم خب خود بند خدا ازیت شده یعنی یه نفر بیخود یه موسسه خصوصی مردمی مردم با رضایت کامل دارن هیچ حرفی ندارن ببینید اینا چه رسوایی بردن. آه به بار آوردن آبروی نظام بانکی کشور بردن اون 8 میلیارده که گفتم دارو میگرفتید اصلا مزخرفات مزخرف پشت مزخرف یعنی نقدی نداشتید تو این حمله شما تو حسابهاش کدوم نقدی نقدی سر برای چه کاری میخواد ببینیم پول نقد چیکار کجا اینقدر پول نقد میدن حالا میرسم تا الان بزرگترین عدد برداشتی کل تاریخ ما از ابتدای آفرینشش نه بر؟ دو میلیارد 835 میلیون توم هم بوده که از حساب ملت ده چل همون بوده برای خرید زمین و موکب در هر را بوده ببینید بزرگترین برداشت صادراتمون یک میلیارد بوده که زدیم به ملی شبه طبق دادیم خودمونیم ببینید نمونه دیگهش حساب اون یکی ملتمون بوده 600 میلیون بزرگترین برداشتش بوده برای خرید های موکه بوده <تصفح> اسپیس خریدیم رفت اونجا اسپیس زدیم سازای سبوک که پیچو موره میشن به اون اینو <تصفح> از رسالت اونجا دو تا داریم یکی جاریه اجاره ها رو میدیم درسته از اینا جاری مون اجاره ها و این چیزا رو میدیم هم برای نظر خاصه مثلا ما توی استودیو ساختی بر مهدویت <تصفيق> میخوایم تو یه کانال یوتیوبی تو مهدویت بزنیم همین اپ 19ده شروعش یه کانال یوتیوب میخوایم یه دانشگاه مهدویت تو یوتیوب درست بکنیم به زبانهای مختلف دنیا معارف معدبی رو منتشر کنیم نیاز به یه استودیویی بود حالا اونجا فکر فکرین ما جا دادیم رفتیم بابا یکی از این بچه ها راضی کردیم تو پشت و خونشون اجازه بده ما بریم استودیو بزنیم ووزی خب بعدمید چکار کردیم؟ اینجا یا مثلا پویش نظر زور داشتیم فقط اینو اعلام کردیم. <تص> خب اینا همش نازه به گذشته است یعنی مردم میتونن شبکه تو می سرچ کنن همون موقع که مثلا ما دو سال پیش سه سال پیش نار گفتیم هستش امه. یا مثلا فرض بکن یه بنده خدایی اومده آیه نقاش هنرمند این ماجرا استودیو رو شنید ایشون پشت محله تهران یه جای دارن برای کار موزمانی میکنن اصلا من با کسب کار شخصیش شخص اصلا کاری ندارم اطلاعی هم ندارم خب بعد ایشون خدمت شما عرض بشم که وقتی خبر داشت که آقا منم میخوام کمکی کنم ببین ما مستقیم میتونیم اینجا بگیم بزن به حساب هم چی چیکار کردیم؟ میگیم بزن به محسس. حساب از مؤسسه هم. همه چون شفت ببین باید. آره این وارد میشه خارج میشه این رو دو دوبار حساب میکنن ام. درست شد و اگه نه بقیه میشه چی کار میکنن؟ بزرگترین 754 بوده که رفته به ملی مصف <تصف> این کاملا مشخص یعنی مسیرش اومده یه گزارش در تفخصوصی اولا اینجا که گنگ کشن به ت تفخص این ت تفوت از بانک انجام شد اجراش و بانک دولتی و خصوصی دو بخش شد آقای س نظام این مصوی شد بانک دولتی آقای علیزاده استان فرس محترم مم شد بانک خصوصی نجلس تموم شد گزارش این بانک در نیمت بانک که می چه بلایی سری کشور آورده انقدر این این فزاحتی که اینا بار آوردن که بار آوردن وحشتناک بود. آیا علیزاده مصاحبه کرده تو سایت خانه ملت هست. اعلام براعت میکنه از این کاری که سایت مشرق کرد. مم. و این حقیقت هی... هی... مثلا طریق تفحوس. یعنی طریق و تفحوس کل ها خلاصه شد به اینکه مؤسسه مصاف چقدر تو ازوش پول میریختن؟ وای بر شما. اف بر شما. نه عزیز من جریان سیاسی سی بود. انتخابات بود. بعضی از این آقایینو بالاخره ما تو لیستمون نذاشته بودیم ناراحت بودن بعضیشون نماینده رد صلاحیت شده یا اسمشون مشخصه که دیگه رد صلاحیت شدن دلایل رد صلاحیتشون رو من میدونم اما مسئونا نیستم که فقط اگر گفته بشه که دلیل رد صلاحیت اینا چی بوده خب اش اکش ای اینا اعتراض بزن بر شورای نگهبان آ شورای نگهبان اعلام کن بگو گفته بشه تا مردم بفهمن ما خود یه حق يا سیاسی یه حق داره دوستا ببین تو لیستش نه نذاره دیگه تو در تفاظ گفتن این خیلی مهمه تيه 24 فقره 8 میلیارد پول نقد گرفته شده این چی بود پول نقد مطلقاً همچین چیزی وجود نداره کزم محض دارم اعلام میکنم جوری میشه یعنی عددش اشتباهه یا آقا 8 میلیارد پول نقد کجا میدن این میخواستن ترابل مجلس بزنن باشه خودشون پول نقد رفته بودن گرفته بودن آره بابا ببینید جلوی پسر آقای غالیباف برادر من علم کردن جرای تلاولا اینو علم کردن خیلی واضحه بدیهیه اصلا از ارون. چرا چون اصلا بیخ قلطه بینه چرا نه تنه از بیخ قلطه برای اینو به هر کسی بگی میفهم مزخرفه یه کسی دوار بانک رفته باشه من به عنوان نمونه در یک فقره 8 میلیارد تومان از حساب مؤسسه مساف به صورت نقدی از بانک دریافت شد و به حساب امیرحسین رائفی پور یعنی اخوی من بردار نشسته است و مشخص پس از آن در اختیار چه افرادی قرار گرفته و یا آن که صرف چه اموری شده است. حالا بذیه. اول اینکه چیز بماس. آقا بزرگترین واحد پول ما چیه؟ اسکناس ما. صدئه دیگه. اصلا صدی میگیریم. درست شد. ترول هشت میلیارد میشه هشت تا بسته ی صدی بعد این هشت تا بسته ی صدی رو گرفته چیکار کار بکنه؟ با ماشین گرفته گذشته تو فرغون فکر کنید چقدر؟ احمق فرض کردن مردمو کل پولی که از حساب مساف به حساب امیر حسین رفته از پسو مصارف 500 میلیون تومان بوده فقط خب تو یک فقط نه اون سه صفر فقره بود دو یا فقره بیمه بوده که اونم من سندشو میذارم عکسشو بذارید عددشو بذارید خب بیمه بوده که خدمت شما عرض بکنم هر کسی که کار کرده میدونه توی سامانه ای سرویس باید فقط با کارت بانکی پرداخت بشه میره به حساب مدیر او اون میزنه اینم اینن بیمه پاره فقط من, من اینا 8 مون کجا والله جز به من هست. اصلا این حجم از بی شرمی و بی حیاوی واقعا برای من عجیبه ببین من ترتفوس هفتام آقای علیزاده مصاحبه کرد اعلام برائت چی گفت به ما ربطی نداره از حجم این تصافت کاری گفت آقا این به ما ربطی نداره این چیه این بعد ایشون اذعان میکنه میگی این عقد گشایی سیاسیه آقا یه که آینده چیکار کرد با مملکت <تص> آه. چند ده هزار میلیارد تومان بعد اومدن اینجا میگن پول چی؟ 50 میلیون تومان حساب باباش نمیبینن خلا خجالت نمی کشن اصلا یعنی خیلی بالا پایین کرده بودن اینا متاسفانه بعضی از امنیتی ها کمکشون کرده بودن نه دستگاه امنیتی ها بعضی از امنیتی های فاسد خود سر به اینا کمک کرده بودن خب که من گزارششو به نهادهای خودشون دادم این افراد من تا جهیتی خودم شناسایی کردم به اون نهادها دادم که چه افرادی بودن با برخی از افراد تماس گرفته بودن قبل چیز گفته بودن که تویت علی رایفی پور میزنی اسم تو از تو این حسابا در بیاریم بزن. بله با پرادت نمبر زنگ زده بودن که بتونم یه 4 نفر آدمی که مثلا فرض کنید به ما نزدیک باشن یا یه روحانی رو برداشتن انداختن جلو شروع کرد به حرفای عجیب غریبی توی در مورد علما زادت و فلان خب از همه رو شکایت کردم مطوژ زمیر قوه قضاییه و دادگاه اینا تو زمان بر دیگه خب تا بخواد جوابش بده چه انتخاب تموم شد این همین رو اما پیگیریش ادامه داره درنا نه به خاطر اینکه اینا آبروی مردم رو بردن آبروی نظام بانکی و کشور بردن آبروی مؤسسه امام زمانی رو بردن ببینید چیه کارآمدیش خارج چشمینا شده اما قبول دارید آقای رافی پور که این فعالیت های سیاسی به خصوص حالا مشخصا انتخاباتی شما ممکنه به هر حال به اون اصل ماجرای فعالیت مهدویت و اینها ضربه ای بزنه ببین قبول دارم اما مردم باید روش بده کنن مگه فضای مهدویت جز فضای حکم را نیست اصلا این انقلاب بر چی درست کردیم پس خدای, خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید فهمید نهضت خمینی چی بود نهضت خمینی تا کجا باید بره نهضت خمینی چه جوری باید بره با چه ریل هایی باید بره نهضت خمینی اقتصاد نمیخواد رسانه نمیخواد کار فرهنگی نمیخواد، کار اجتماعی نمیخواد. خب نمیشون مثلا مساف ورود نکنه، شما دیدی حزب جدای از این تشکیلا، حزب جداییم دیگه الان. کاملا جداست. الان عملا این حساب های به هیچ هیچ ربطی نداره. امه. یک مورد بیارن. من حتی تو گزارش که به مردم دادم عرض کردم گفتم من پول شامی که بچه ها میموندن اینجا. اینا رو همه رو جدا حساب میکردن. کل جریان سیاسی که انجام شد یعنی کار انتخابات یک میلیارد و 2300 میلیون هزینه شد خب هیچ ربطی به اینجا نداره <تصفيق> اون جدا بعد حتی بعضی از این بچه ها مثلا میموندن کمک میکردن بیرون ساعت کاریشون بوده ساعت 4 بعد میرفته حالا 4 تا 11 تا 12 شام موندن اینجا شام میمون من اون حساب میکنم علل حساب ما پول برق پرداخت کردیم تا این حد رو من ملاحظه دارم برام خود من مهمه خیلی از این افراد که میارن علی مثلا جالب براشون مثلا میخوان یه پولی بدم میگن من من تو این اوضه نمیخوام بگیرم میگن چرا میگم آقا من نمیتونم رو خرجش کنم نمیدونم با چیکارش بکنم طرف میاد نظر خاص داره میگم به من من نمیخوام من درد یه فولدی تو ذهنم باز میکنه هی دیگه بعد آدم میفته میمیره بیچاره میشه اون دن بعد جوابه تو اومدی خیری از سر خود رد کردی رفته ببینید مهدویت اینو بعضیا به من میگن یکی موردیت گفتش که من دستتون آراحت هم دوست داشتم حالا وارد فضایش میگم آقا مهدویت یعنی مردم با اون معارف مهدوی روشن آشنا بشن وظایف خودشونو پیدا کنن چه چه چه چه ویژگی مهدویت اصلا بعضاش فرا مذهبیه به فطرتت برمیگرده مقابله با ظلم امید به آینده در تاریکترین شرایط اینا دنیا رو میتونه نجات بده درسته با این شرایط من یه نکته یا همه دنیا یعنی دنبال اینن که این فضاها رو بسازن اماش کجاست اما که چرا فکر میکنم راجعه نامت کار کنیم یه نفرتون بالا بشینه با یه قانون غلط یه گند بزنه به اقتصاد مردم ده ها نفر رو بکنه بعد من دونه دونه برم به چرخم میبارم و سخنرانی کنم چقدر همین فضاهای بد اقتصادی این ده 15 سال کشور زندگی های رو خراب کرده پدری که دیگه باید سه شغله باشه دو شغله باشه وقت می‌کنه به تربیت بچه‌ش برسه بعد من برم به تربیت بچه‌ش برسم من چنجه میتونم باشم من نوعی ها، افراد شبیبه پس بذارید از ریشه درست کنیم یک نفر از اون بالا آید دکتر داره سیل آب ویل کرده ما اینجا داریم با قاشق چم می‌کنیم حد اولی جان دفع شر موش کن وان در جمع گندم کوش کن یا جوش کن اول اینجا. من نگام به مهدویاتینه وقتی یک حاکمیت بیاد یه تصمیم بگیره چه تصمیمی هم من شما چهار نفر بشینم یه تصمیم بگیرم اون چه اثری داره وقتی حاکمیت فرض بگنید بخواد همکاری کنه با فضای عربعین کشور چی میشه؟ فرض کنید یک حکومتی اجازه نداره مثلا همین طالبان اجازه نداره سالی ما به وضوح میدیدیم افغانستانی رو تو عربعین نمیدیدیم حکومت نکرده. یه موقع سا... پاسپورت نمیده میخواد چی کنی؟ چیچه میخواد یک کشور به یک کشور دیگه؟ اینه بدیهیه یه تو مسئله سربازی؟ خب یه سربازی جهاد فضای اختیاری داره اصلا بعد یه جهاد کفاییست در حالی که نون زن و بچه رو در رو بردن جهاد اینیه برمرد خب اینجا امنیت کشورمون هم هست ما یه با سربازی با هم صحبت ده. کرد خواخوا خب چیکار بکنیم من برم به جون دونه برم تو آموزشگاه بر بچه بچه‌ها صحبت کنم یا بگم آقا بی پول اینجوری برید الان هم در رفتید که نرفتید که چیکار کنم یا ببینیم از بی خل کنیم میشینی کنار هی توصیه می‌کنی توصیه می‌کنی توصیه می‌کنی اینا اینا با مثل لاک‌پوش دارم میرن جلو. یا یو حضره ده تونم آماده بفرستم تو مجلس پیگیری یه کار باشیم من بخشو تموم بکنم چون بله. چند خط بیشتر مونده اونت انقد این حرف عجیب و مزخرفه اصلا مثلا اون 8 به پول نقد چجوری به شما معلومه بالای 15 میلیون تومن پول بگیرید و فونو پولشی, پولشی پور کنید این برای چی بود هم دیگه میخواستن اون ها... تقریبا 200 میلیارد گرفته بودن دیگه پول نقد خودشون تراول نقد گرفته بودن به معلومه می کجا شده زده رسانه یکی رسیده چرا باید پول نقد گرفته بشه شما قرارداد رسانه مجلس داره دیگه سایت داره خودش و داره دستگاه داره شروع باید این کار کرده باشه اینا ما مدل اون مثلا بسازن این عدد یعنی چی 8 میلیارد دلاری توی ان فقره یه فقره 20 فقره ده فقره شو چه فرق میکنه؟ این فاجعه است بودجه با... رسمی خبرگذاری مجلسه من اشتباه نکنم که در بودجه اومده باید 7 یا میلیارد در سال خودش فقط بودجه داشته خلاص من نمی‌اتونم ندارم نمیدونم شما یا گفتن اینا گفتن 100 میلیارد که عدد بزرگ تو ذهن بکاره؟ توی دو سال تو همین گزارش تخیلی در تفهوس گفته که مشرق گفته 50. ما چی شد؟ تو یه هفته 100 شد 50، بقیه عدد مرتون همینه تو گزارش مشرق اومده من چا چن... رو میخونم. مؤسسه مساف ایران در حال حدود 5 میلیارد تومان دریافتید تحت عنوان هدایا و نذورات داشته. اینجا قبول کنه پس چیه؟ بودجه بتل مال نیست. اینا ببین چون اومده اینجور درست کنن ده در جای دیگه خراب کردن، ویژگی دروغ دروغامیده. جور ژورنالیست دیگه که تاکون علی اکبر رائف به گزارش دقیقی جز ویدیوی منتشر شده فضای مجزی. در فضای مجازی درباره آن نداد نداده خوب من یه بار فقط با خود شما گزارش دادم به مردم ببینید اینا نمیدونم سرچ نکردند شب کوشتیم و این به عبارت اسناد حسابرسی آن منتشر نشده و تنها بیش از چند خط پیام اینترنتی نبوده است او این در حالیه که اظهارنامه مالیاتی ما برای همون دو سالی که اینا میگن. به اداره امور مالیاتی تسلیم شده در درآمد ما در اظهارنامه معادل همین 5 میلیارد دیگه نگوفتنه. آخه واقعا نمینه. بعد درآمد مالیاتی به کی رحم می‌کنه؟ یعنی هم سال 25ی که من خودم گفته بودم. این دو سال آخر اینجوریه. مشرق میگه که بر اساس تراکنش مؤسسه مسافت در شماره حساب بانک صادرات تحت عنوان نظرات مردمی نزدیک 5 میلیارد تومان جاری شده. اما برخلاف اساسنامه مؤسسات خیریه معلذر گردان هیچ کا اعلام نشده است. یه مؤسسه خیریه باید اعلام کنن. خیلی خوب آفرین اینم باز مزخرف پشت مزخرف درو... چرت پشت چرت چرا مسوف اصلا خیریه نیست مسوف مؤسسه فرهنگی و هنری با مجوز برگزری های مذهبی و مکب و انتشاراتی که اجازه دریافت کماکم مردمی داره این یک دو ما خیریه مون اسمش خیریه مهر مهدویه یعنی میاد مهر اون اصلا کلا یه سیستم جدا داره حساب جدا, جدا هیئت مدیریه جدا همه چیش جداست جالبه اینا اومده بودن می که شما چرا هيئت مدیرتون حقوق نمیگیرید؟ بابت این داشتن توبیخ میگارم با چورو. <تصفح> خیلی عجیبه گفتم آقا نمیخویم بگیریم. پول خیریه دلمو نمیدونه. <تصفح> مگه شما رو فرمودید که باید ها بیان منتشر کنندیه. امیدوارم خیریه این امام رضا چیه؟ مال خانم آیقالی باشه ایشون هم بیاد منتشر کنه. که قانونا باید منتشر کن سامانه کدال چی اونجا بود. ما برای ما رهن ماست پول گرفتیم. دوباره برگردوندیم. برای خرید موکه پول گرفتیم، قرض گرفتیم، دوباره برگردوندیم. حقوق خیلی پیش اومد. آخره برد با حقوق نداشتیم بدیم. چون حقوق عدد گنده میشد. باید نه. یه 1 میلیارد میدادیم. 700 میلیون میدادیم. خب. شما پول قرض گرفتیم، دوباره پس دادیم. زمین موکهب بوده. همینجوری بوده. آهن موکهب قرض گرفتیم. یک سریش هم هنوز مونده ما به آن پروژه بدهکاریم. خب؟ ضربه که ما بی من رو خوداست در طول عمرش نخورده بود. فقط قرارداد موکهب ما آهن شما زمین کلی سازه خیلی اینا گرونه نزدیک 23 تومنه خب فکر کنم تا الان ما موفق شده باشین اینا شما 17 هم چقدر شده باشه بعد مساف یه چیز به شما بگم این 22 نفت کارگروه اینا کاملا جدا جدا مجوز جداوت داشته باشن ببینید مم. مثلا ما داریم بود آقا یه جه دیگه که اینا مجوز ما خودرو سازی ببین اینا چقدر به خدا شوتن یعنی تعطیلن واقعا اینا نمیدونن که ماشین سی سی دستگاه تراش به اونام میگن ماشین. بعد مجوز شما بری بگیری برای این کار. ما رفته مجوز ماشین سازی، این ماشین رو با خودرو اشتباه گرفتن. مم. خب اون سیستم کاملا متفاوت. حالا اونجا مثلا ما هیئت مدیره گوششیم. هیئت مدیره چیه؟ ممکنه سه تا از بچه‌هامو تو دو تا این ها مشترک بشن. معمولا بچه‌ای که مهندسی خونه رو گذشته دوم اون که توهذی نمیدونن مثلا خدمت خب شما از کنم که آورزی و نمیدونم مویتزیست و این فزا بخش امنیت غذاایی و محیط زیستمون اونایی که نمیدونن مثلا محدوییت اون من رو از سازمان تبلیغاتهی در رو صحبت کردیم خدا تومده. بارندگی های اخیر رو میم یاد بخشهایی در مورد آب که با هم صحبت کردیم آ خدا ختون بوده ما اگر پولی گرفتیم خررج کار میدوند چش مردم انقدر برای اینا باور نکردن که می نه یهی دارن یه پول بچ بالاخره ما پول بهتون رو می می همینه که شما گفتیده گفتی پول به تونال کمک مردمی بوده خوكماكم خب، مردمی که خب، من خودم عادتش است شما دو سال گفتید من از 90 گفتم شما بانک رسالت ما رو الحمدلله دسترسی نداشتید خب بعدن بانک رسالت گیم بینا نداده بود ظاهرا خودتون درخواست بوده خب، طولات بودن. خروجی کار ما رو سپاه خوزستان برید بپرسید وقتی رفتیم تو اندیکو خونه ساختیم خروجی کار ما رو سپاه کوکیلوبوی رحمت میدونه ما سیمان و اقلام همه چی تهیه کردیم دادیم دست سپاه اونجا گفتیم برو بساز بعد سایت مشرق سپاه میاد این کار انجام اینکه من عرض کردم من سپا، ساعت سپه سپه از این بود چرا چون مردم اینا رو نمیدونن خوب بدونن مسئول سردبیر مشرق نیوز ای داوریه رضا داوری نه عبدالرضا داوری رضا داوری دبیر شورای اطلاف هم هست اصلا این دفترش هم یه جا بود ایشون از طبقه بالا میومد پایین طبقه پایین میرفت بالا <تصفح> دفتر مشرق میرفت شونا از شونا میرفت دفتر مشرق خب اسم خواهرزاده آیه مهدی نصیری دیگه من نصیری معروف حالا هم موقع قدیما من یادم توی سایت مشرقیه بخشی رو میذاش برای اندیشه های آیه مهدی نصیری تو بخش آقا رهبری در مورد چیز تریبون ها چی بگید آزاد گفتگوی آزاد عبارتی داشت کرسی آزاداندیشی کرسی آزاداندیشی مثلا فرموده بودن ایشون اومد سمت راست ستون مشرق و یه بخشی گذاشته بودن در مورد آرا و اندیشه های آیه مهدی بله خبشون تفکیقیه مثلا علامہ حسن زاد رو قبول نداشت تو همون مقالاتش نقد می‌کرد و 500 600 تومان یادم اونجا نظراتی می‌ذاشتن که بعضا متأسفانه توهین به علما بود والا بود دیگه حالا والا دست و خوششون پاک می‌کنن من کار ندارم خب ایشون اینه مردم فکر میکنن سایت مشرق این سپاه زدنا خیلی توریست بله یه تصمیم فرد متاسفانه و من این انقدر این درک و دارم که اگر یک نفر از یه بدنه کار اینو رابطی به سیستم ندادم تو هنوزم واسه ما وقتی دورین کار محرومیت از داده انجام میدیم میرم سپاه اون منطقه داره خودش آگاه اونجا ریشه داره میشناسه اهالی همونجا هستن من اندیکا که رفته بودم با فرمانده سپاه اندیکا داشتیم صحبت میکردیم یا سی سخت بود اندیکا چون دو تاشم زلزله و این چیز اومد دیگه بعد رفتم اونجا برگشت من گفتش که مثلا اینجای سوله است خب اینا میتونه شما درست کنید گفتم مرد اما همه عالم آدم میرن از سپاه چیزی میگیرن تو خب سرآق ما خود من خدا, خدا خندیدم فضا این شکلی بود کار زشتی کردن به خاطری که از فردا بعد همین کار رو مثلا مادن در مورد که در مورد ویدشتری هم انجام دادن حساب بدونم دختر بچه مثلا دو ساله رو بودم داشت. یعنی کل حیثیت اون کار رو بردن به خاطر مخالفانه یک فرد مخالف منتانه یک فرد خب من اصلا کار باید اشتری ندارم اصلا ایکس نه ایگر نه زد اوه همه اینا در قال چهار سال من فقط سوال پرسیدم به خدا قضاوتم نکرم گفتم که یه بحثایی رو آقای یاشار سلطانی در مورد فرزند شما ترک بیا بگو راست یا درو اصلا راست من الان براحت میکنم تمشن. در مورد خرید خونه, خونه, خونه, خونه, خونه, خونه پسر در آلمان راست یا شما در این سالها یک کنفرانس خبری شدید من چند بار اومده هم خود شما نشستم جاه دادم تا جام رفتن می‌شدم من نماز از مطلق میرم میشینم هر رفتم تو آخرین خبر همین آقای احدیان نشستم <تصفيق> بودم هر دوست دارید بپرسید ترسی داشتم نه چون حسابم پاکه نمیگم هر کسی نمیره من مثلا حسابش آلوده است نه نمیدونم اما با موعظ به خدا فضامون این بودی که میخوام مسئول رو پاسخگو بشن یک کشور زیر سوال بره به خاطر یک فرد به بچه یه نفر خوب نیست به خدا قسم یک کشوری تو اون اسکیل رژیم سینیستی رو میگیره زیر موشک که عهد و دو دنیا جورت نکرده داده همه هممون همه بغض شده تو این اسکیل این قدرت بعد بیا مثلا خلاصه بشه بعدش میگم دکتر من میگم شما ببینید این مجلس حالا ای غالبوف یاد میاد میره شما میشه نمیشه دیگه یا من تو مجلس این مجلسی که ببینید اینا کلاژ درست کردن هنو هیچ نشودای مالک شرعیتی داره تو این مجلس. روز تاین اعتبارنامه ها فوش و فوشگاره یقا یقا یقای دلوقتي. کشی رفتن اون بالا خب اینا هم به ما ربط داشته آج آقای سلیمی و مالک ش... شریعتی از لیست خودش شورای تلاف رفتن با تاجگردون که از مستقلین و رعیشون با آقای قالیباف بوده درگیر شدن به ما چه ربتی داریم وسط نه واقعا به ما چیه؟ ببینید اینا؟ این خودشون هن آقای نوری غزلجه از مستقلی اومده میگه که آقا قالی وفه ما قول لاده تو مجلس بمونه مجلس برایش اولویت داره نره برای یا سجوره مصابق خودش دیگه به من ربچه نداره بعد سوال ببینیم ایشون میری یا نمیری دیگه صد نفر اصلاح طلب ها نه. اینا رعیشن با آقای زنور بود با خود ما جلسه گذاشتن گفتن آقای زنوری یه جایی مثلا شاید یه داشته خب اما عادله تو برخود با اصلاح زمان که رئیس نایب رئیس بوده تو مجلس رو برابره من با خود خداجای زنودی صحبت کردم گفتم ببین الان شب نزدیکه گفتم ببین براو برداشتینه که آ قالیباف رای میر. چون با مستقلین رفته بود گفته بود خیلی جالب دوگانه ایشون خیلی فنی عمل کنه مشاورینشونو خودش رفتن به مستقلین و اصلاح طلبه گفتن که من میمونم تو مجلس اینا منگیزه پیدا کردن گفتن نیات برای جمهوری ام. همین مجلس بمونه خب شاید بشه شبیه 92 یک کاریو رقم بزنیم قدرت اونورا به دست بگیریم احسن این نیاد بالاخره یکی از رقبا رو چیکار کردیم حذف کردیم یکی از کاندیدار رو حذف کردیم اونا چند تا اونا اصلاح طلب و مستقلین با هم نزدیک 100 تا ببین سه تا تا یا 90 تا شده بودن یکی شانایا یکی ما یکی مستقلین و اصلاح ستا. ستا تا تا ام. به اینا اینجری گفتن مثلا آی احمد نادری مصاحبه کرد که آی قالی در مجلس بمونه دیگه ببینید چی؟ یعنی بالاخره مجلس به شما رای داد 198 تو یکماره راحت باشه که شما همینجار کار بس... بکن دیگه دیگه ریاست جمعی نریا رسمه مصاحبه کرده بعد پس یه ادهی هم باز انگیزه داشتن که اینات جز انقلابی بودن قالیبوف اون طرف نیاد بر بمونه عین اونا اونها کسایین که توی ریاست جمهوری خواسن کنشگری کنن مثلا آیه بسواش قصد کنشگری ریاست جمهوری داشته شریان مجموعه که نزدیک به ایشونه دعوت کرد صراحتا به در مجلس خب شریان هم کاندیدا راه تو مجلس درست شد ببین هر کسی که اون طرف قالیبوفو رقیب میدونه تو ریاست جمهوری انگیزه داشته که بمونه اینو من اسم نبرم یه دیگر دیگه رفتم رفتن باشون صحبت کردن مثلا صحبت شده با زهره بند ما که قالی... لاریجانی از اون طرف میاد هم از این طرف باید بره جلوش بیسته وگرنه لاریجانی راه میاره دوباره یکی از اونالا لاریجانی یکی از اون ها راه میاره لولوی اصلاح طلبوا خب پس چیکار کنید یه رأی دور خوب به آقا قالیباف بده یه 230 تا رأی بیاره این طرف با این پشمانه بره. با این پشمانه برون بر. من حالا ایشون دو حالت داره یا میرود یا نمیرود. اگر برود به اونایی که گفت این خلافش در مورد احسان کسی گفته میمونم تو مجلس اثبات میشه. اگر بماند میگن تو که قلدد بری. پس چرا مونده اینجا؟ درسته برای همین این بخشه با آب دهن اینا رو هم چسبوندن. اینا هم میپشه. و مجلس سختی خواهد داشت. مجلس بسیار سختانه توی دو روز, که دو روز دو سه تا اتفاق و او تو دیگه نمانده چیز زد دیگه تویید زد بلی اون شمارش ام. که واقعا خیلی عجیب بود فاجعه بود دیگه فاجعه چل تا تو چند تا چل تا فاجعه کاغذ دارید میشمورید چیزی نشده این چیزی ای به خدا قسم اگه همین در مورد کسی دیگه اتفاق افتاده بود اینا با این قدرت رسانه‌ای با این پولی که دارن تو رسانه خرج میکنن الان چیکارها که نکرده بودن اینا من بگم در مورد شاید سوالتون باشه در مورد من هم... کاندیدای صبح ایران یا این مسائل آره نکته همینه که دلاخرت چقدر شما مواز اینا رو قبول دارید چقدر نفوذ دارید روی اونها چقدر فرمان تذیری به تعبیری آره شما اولاً منو دارم عرض همین دوستانی که تو محسسه ما هستن نامش همه شاهدن من به یه چیزی رو که هرگز باش نمیتونم کنار بیام استکبارم هیچ وقتم چیزی رو بر کسی جهب رو کنم ممکنه دو بار سه بار بگم گوش نکنه دیگه کلن کاری ندارم خب من حتی سعیم بر اینه میخوام به این نفر بگم یه کاری رو مثلا ازش بخوام نمیگم اینو بده میگم اینو میدی اینو میاری سعیم بر اینه چه بر به یه کا؟ یه مستقله. یک نفر از این عزیزان بیاد که من بهشون فشار آورده باشم اصلا بعض موقع اینقدر من به اینو تماس ن بودم خودشون همتون نمیخوا بیایم چ ببینیم بعد یک نفرشون گفته باشه من یه قرون پول بهشون گفتم بیاد بید اصلا مرسومه دیگه همین آره مثلا هدوی عجیبه بر لی اصلا هزینه شده بالا خره شما نگاه کنید کل خی اون انقلا نگاه می کردید پنجم انجام یا. خ... بنر شنا بود یا بنر امنا بود جزینه یک دونه بنر ایران دیدید اینو بفهمیم این موفقیت با چه میزان کار صورت گرفته با چقدر عدد تبلیغاتی با چقدر فرصت کار تبلیغاتی ما تو دو هفته تصمیم گرفتیم کار را انجام بدیم بعد از کی افراد خودمون نبودن خیلیاشون خیلیا آره رو ما مجموعه مشم خیرالمج همونایی که اون سازکار انداخته بودن بیرون خانم غیسری که در تهران امروز نماینده مردم منتخب مردم تهرانه و متخصص حوزه انرژی ایشون توی شانا بالاترین رایه میره اما میندازنش کنار خارشوهر یکی از انتخاب کننده‌ها میذارن باورتون میشه به قرآن شوخی نمیکنم من جوک تعریف نمیکنم من افتخار میکنم که اون خواهر بزرگواری که بدون که من بشنوسمش اصلا به ما آمدن گفتن ایشون نمیدنم یه زمانی برای غالباف تویت زده بوده بزنم چه حرفیه به خدا گفتن مسئله ناترازی انرژی داریم ایشون تخصص داره ایشون آمد مسابقه کردیم با سواد فلان حمایت کردیم به هم روز تو مجلس افتخارم میکنیم اینقدر اصولی و مبنایی و گفتمانی کار شما پس توصیه آه. این که به یک طرحی رأی داده شود فلان قانون کار من از ابتدا 15 20 ساله من چون کارم تربیتی بوده کارم <laughs> اقنایی بله من نماینده محترم ازشون بخوام ازم بخوان حتما براشون بهترین کارشناس اقتصادی میارم مسئله رو توضیح بده بهترین چه حوزه انرژی رو میارم براشون توضیحات بدم اندیشکده ما در اختیارشون قرار میدم کار رسانه‌ای بخوان کمکشون میکنم خب اما جبر نمیکنم اما اینم به این معنی نیستش که تخلف از کارهایی که مردم قول دادن انجام بدن رهاشون کنم. اینجا چه صبح ایران باشه چه شب چه می‌دونم عراق باشه <تصفيق> خب اصلا اون تخلفه همون تعمداتی که بله. این قول داده به مردم گزارش بده. مم. قول داده به مردم رو راست باشه. قول داده دوچار فساد نشه. اگر این ازشون سرباز مگه مگه ساله، مثلا چند تا رو من پیگیری کردم سال‌های قبل حالا دیگه اسم نبری. عالم هم هم ترسانا میدن کیان خب مگه موقع اینا عضو صب ایران بودن که سن وجود داشته من کسی که عضومون نبود در ولش نکردم <تصفح> خب شما که اومدی اینجا تعهد دادی جلوی چشمه من دست رو قرآن گذاشتی سوگند به کلام الله خوردی فکر کردید رهاتون می‌کنم اینجوری نیست اینجوری نیستش که آبرو و حیثیت و همه چی یه مجموعه ما مد... به این مجموعه امام زمانی اومد وسط برای اینکه به اسکیل انتخاب مردم ر... این مرحله رو بیاریم بالاتر مردم دیگه از اینا جاده و نمیدارم آسفالت تو این چیزا نمیخواستن اصلا این دفعه وعده ها چیزای دیگه ای شد خب من بار عرض کردم اصلا خیلی عجیب بود مثلا ما فرض بکنید من آقای متحری و بتهایی رو میخواستم بذارم تو لیست ما بتهایی تلفنی صحبت کردم اتا ایشون من تمام اون نکات که شما دارید قبول دارم و حاضرم بیامون گفتم. ما رو به تهدید کشوندن کی؟ تماس گرفتن یه سری مجموعه ها که آقا اگه برید سراغ اصلاح طلب ها میدیم فلان آه. کس بعد از فلان جلسش توی بالای منبرش این نکاتو در مورد شما بگه میگیم ممنون فلان کس این حرف رو بزن آبروحیسیتتون رو ببره دلیل سابقه دولت هایی حالا بدن خودم سنم استفان دادتون دولت یعنی ب... مردم بدونن خیلی کار سخت بیشرف. یعنی چی یعنی اولا شما خیرال ندارید شما اگر یه موقعی اس من خودم میخواستم برنامه‌ریزی کنم میگفتم فلانی فلانی فلانی برید پیش ثبت نام. تو میدونم تو به درد کشور میخوری. برو پیش ثبت نام. میدونم از این سازوکار این مصاحبه های ما در میایی خب اینو که نبود حتی اگه شما مثلا آید محمد میتونست سپر ثبت نام کنه. جزینه. پیش کونسل هم نه اصلا بعد پیش ثبت نام ما با این تسلیم رسیدیم. ساز دیدم سازو کار. کار نامردی دارن میکنن به خلف وعده دارن میکنن خب اینجوری اومدن فکر و فامیل همشهری و نمیدونم چی و چی اینا رو جمع کرد خب خدا زشته به خدا در شعن سیاست ورزی هیچ کشوری بول چی نفاسو هم نیست به خدا شیعه خانه امام زمان و انقلاب اسلامی و نمیدونم چیزا اصلا خیلی بده بعد کلی حمله چه فضای دار کدش چه از مز... دروغ نمیدونم در مورد خانواده ای طرف نمیدونم چه میدونم پول شویی کردید شما نمیدونم فلان کردید اما اونم گفتیم با شما منحرفید به دوستام گفتم گفتم ببین اینا انحراف عقیدتی به مجموعه نسبت دادن که تخصصش کار علف فرقه هاست خیلی <تصفح> جالبه انحراف مالی به مؤسسه نسبت دادن که جز پاک ترین مجموعه هاست به دیتیل امروز مسئولش نشست اینجا براتون گزارش داد. قبل اینم گزارش داده بود. مثلا حوصله شما خارجه ما 400000 مثلا میواد چی میگه؟ میاد آقا سالی اینقدر دارم واریز میکنم خرج این کارم کارام داره میکنه. خروجی مونم چه چشم مردم. درسته. اما اونا نمادن چیکار کنن. سه گفتن فقط یه چیز اخلاقی مونده دیگه. منتظر باشی هیچ اخلاقی اینا علام میکنن دیگه. چیزایی گفته بودن در مورد طلاق و نمیدونم بحثت. <تصحیح> <تصحیح> مش زخرفه آره میگفتن اولا آدرس شما دفتر قبلی ما نیومده بودید نه نه خب دفتر قبلی ما نظامواد بود بعد آیا امیرآبادی فراهانی نماینده قم یک بار اومدن اونجا ما یه لایو اینستاگرامی بعدش داشتیم خودشون تو اون هست تو تعجب کرده بود که شما دفترتون اونجاست آدرس اونجا رو اینا این نادونها به اسم مؤسسه به اسم خونه من گذاشته بودن بعد من که اونجا من میگم من تو خونه میمونم <تصفح> تو دفترمونم خونه نرفتم ها بعد گفته بودن که این لابد با خانمش دعواش شده و نمیدونم فلان زخرف. من به خانم گفتم گفتن یه نه گفتن نیمه من زربوشت میکنم بعد طلاقه بی هده زربوشت مد کنم یه حرف اینو دروغ داره حرف های بی خود و سخیف و زشت و بعد آیا یک نفر مسئله خانوادگی این زمانی که اینا آمدن کارنامه پسر آیا گفت بخش نمراتش نمراتشو خب من خودم توییتم هستم گفتم آقا اینا رو دیگه چرا میریزی کف توییتر؟ یه سوال بوده یه شبکه یه, خ... یه رسانه اومده ادعا کرده ما همینی داریم میگیم آقا عضو یک مسئول عالی عضو خانوم دیگه مسئول عالی رتبه نباید کشور خارجی متخاصمه بره کانادا ما ما دشمن الان اصلا ارتباط خ... چیز نداریم بذار خارجم نداریم ندارییم الان خطر اصلا ممکنه اون بچه اونجا جذب سرویس‌ها بشه اصلا دست خودش نیست ببخشید یه استهام نمیخواد بکنه یه جای بره. فکر کن سرویسا اونجا سوار نمیشن. روی طرف این خطرناکه. به اسم خودشون رفته انجام داده همه اینجا درخواست اقامت دائم. بعد یا بری یه کشور دیگه خونه بخری به اسم خودش رفته خرید دیگه اینا اسنادشه. یا بیا اینا رو تکذیب کن. ما گواذایی نکرده باشیم. اما میگیم این مسئول عالی رتبه است. اگر مثلا ما فلان استاد دانشگاه بچش خارج به ما چرا داریم. مسئول رئیس مجلس <تصفيق> درست اینا خیلی مهمه ها قبلش رئیس مجلس نبوده همش مسئولیت های مهم داشته فهمونده کل نیرو انتظامی شهردار تهران که والا تهران اندازه 20 کشور از او تو و خطر رو نمیتونم چه چه خدا خیرتون بده عوض مجموعه تشکیل مثلت نظام همه حرف همون اینه میگیم این خطرناکه این آسیبزاه برای چی تو همین ب ایللوریچانی که دلیل رد صلاحیتش دوره قبل چی بود؟ من تو نامه که بخشی میگفتن که دختریشون مستردش. کجا مثلا خواهد برای چی؟ میان آقا فردین رئیس جمهور میشه؟ ممکنه یه آتویی داشته باشن. مره. یک کشور درگیر یک فرد ممکنه اینجا یه حرفی بزنم من پیش دستانه همینم هم حلش کنم براتون. میدونم اینا رو میشناسم. با جنسشون آشنا. خب؟ آخه این کارایی که داشته انجام، نگفتن‌ها؟ در تقلب بهشون علنی ال خب؟ ها گفته نشد اینجوری بگم خوب شاید در خفا گفته باشه که آقا اینا برای نظام بوده خب این دو حالت یعنی یکی از مسئولین عالی رتبه کشوری با بچه خودش اون مملکت هیچ آدم دیگه ای نداره هیچ دستگاه اطلاعاتی نداره هیچ دستگاه نظامی دفاعی هیچ دیگه نداره هیچ کسی دیگه وجود نداره که شما یه فرزند شخص خودت رو تو بفرستی بری اونجا مثلا یه خونه بخره به نام خودش شاید بردا بگن آقا اینا برای دور زدن تحریم ها بود یکی دیگه, دیگه, دیگه, دیگه بره دور بزنه ما میگه پسر شما در معرض این سفر و قرار بگیره آقا شما لیست ها رو نگاه کن تو این سال‌ها وای کشوری که شاخه منافه شخصی نداشته باشه همه ترهنگ او گلاکسون همه شیروال کشور انگلو ساکسن استرالیا بوده هلند بوده نمیدونم یه کشور عضو ناتو بوده خب بعد کانادا بوده خب اینا خطر داره بابا من برای خانم خزالی بحث پسرشون توی کانادا پیش اومد همون ما همونجا باز ما اعتراض کردیم خدا رحمت کنه آقای رئیس میگفتش که بچه‌هاتونو جنب بکنید یا بچه نره یا بابا هم بره کسی نمونه اینجا خب این این فضا بعد شکل بگیره آقا ما خزینه ددیم فشار ما خوردیم اینا اینا میفشان برای من مهم نیست مهم سلام که مردم تو خیابونه که وقتی من نوعی رو میرم میگن دمت کم محکم وایستم پشتتیم یه دی سوال ها به هم گفتن که آقا شما فقط فساد تو اون طرفیا میگید نه, نه فلان تو اون طرفیا میگید چی شوت حالا این طرف میگیم چرا میگین چی بری میگید یک خاص اون پیرمرد و نووش شده که اون چیزا رو آره می‌خواستن این پیادهشون سوارشو فلان برای بنده هیچ فرقی نداره از غذا قضا تو اصولگرا باشه دو برابر بعد بر برخورد بر بر بشه چه این ابرو دین رو می‌برن ابرو رو می‌برن اون وری اون لیبراله اون غربی راه ادعای لاغل نداره تکلیف روشن‌تر تکلیفش روشن به تکلیف دین به گره نمیخوره اینجا شما ادعاهات میشه ما خدا نکره برادیم بعد اینا رو بگیریم چرا به مقدسات گرفت بزنیم مثلا چه می‌دونم کار قاسم بوده واجقاسم چرت و پرت دل. اگه مضمون اسم فرد اجقاسم که مطلقا طور نیست. شخص اجقاسم یه زار زندگی با زن و بچه‌اش بنده خدا. کل زندگی و عمرش رو خرج این کشور کرد. اگه مضمون ارد منظورتون نیروقدس که نیروقدسم نیاز به بچه های شما نداره. دیگه نیروقدس انقدر شعور براش قائل باشید که بخواد یه قاره اطلاعاتی توی کشور دیگه بکنه به اسم بس پسر رئیس بلو... قوه نره این کارو بکنه. <تص> والله به خدا من هیچ وقت یادم نمیره خدا رحمت کنه همین حاجقاسه و خیلی از این گروه های مختلف در افغانستان و خانواده هاشون رو میابرد مشهد بعضی ها انتقاد چرا گفت شما نمیفهمید این خانوادهش توی مشهد باشن علیه ایران اقدام نخواهند کرد دیگه ابتدایات و سیاسیه دیگه ایشون آدم پخته این چیزا رو میفهمید بعد از این فر ما بچه خودمون که کشور دیگه بعد ما تعلق کنه حرفی بزنیم علی آلمان حرفی بزنیم علی هلند حرفی بزنیم علی انگلیس حرفی بزنیم علی فرانسه حرفی بزنیم یک کاش یک روزی بهت گفته ما تعداد چند تعداد از مسئولینمون هاشون خارج است با چه عنوانی خارجن تحصیل دارن جمع اصلا تابعیت گرفتن سیتیزن ننمیدونم چی هن؟ چی ان چی هن؟ من خیلی فرق بین درست نمیدونم خدا ما اینکه به بنده نوعی رو بارها هند دعوت کردن، پاکستان دعوت کردن، سوئیس دعوت کردن، مالزی دعوت کردن، انگلیس دعوت کردن، آلمان دعوت کرد، هیچ کدومو نرفتم. گفتم از همین روادر خدا پدرتون رو بیامرزه براتون سخن رو نمی کنم. مسئولیتی هم نداشتم. هیچ مسئولیتی نداشتم. هیچ مسئولیتی نداشتم و ندارم. نداره. شما بیا من منو بید منتشر بکنید. پشت سرم هر سال کربلا، کربلا، کربلا کردم. اشراق یک مجمع نظام با مجمع تشخیص مصلحت نظام به من کارشناس از ما خواستن برید یه سفر چین بوده من رفتم تمام شد رفت یا ده تا کربلا یه سوریه تمام شد رفت بیارن بریم چی بوده کزون کشورم رفت یه سفر حج رفتیم که دیگه کل عالم و آدم و همه که شهر من یه عربستان رفتم چین رفتم لبنان رفتم سوریه رفتم عراق رفتم هیچ کشور دیگه نمون نداشتم دعوت بوده گفت من نمیام از همی رو از دور براتون جام بشید یه جلو سخنرانی میکنم با ویدیو پریدیکتور این کار انجام دادم، مجارستان انجام دادم، برای هندیا انجام دادم، بر پاکستانی انجام دادم، بر افغانستانی انجام دادم، بر ترکیه یا انجام دادم، بر عراقیا جدا انجام دادم. کلی از اجلاسش ما شرکت میکنیم. آه، مادرکشام مسئول صاحبم، بعضیم پخش کنه. منی که مسئولیت ندارم. اینو این فهمم. شما چی تو اینو متوجه نیستید یه پاسخ به مردم، یه توضیح به مردم. چپوراست هم نداره. دختر آقای صفدر حسینی تو لیست استعلام طلبو بشه اشکال دارد عروس فلانی هم توی لیست اصول گره باشه اشکال دارد چطور اونجا او رو میگیدین و نمیگید به قرآن المومین فرقی براش قائل نبود اون چیزی که ما از سیره امیرالمومنین فهمیدیم تفاوت قائل نبود حضرت از غذا با خودی محکم‌تر برخورد می‌کردی بس قرآن مشیش این بوده میگه زنه پیغمبر دو برابر باتون حساب می‌کنه خلافی بکنید خطایی بکنید مزاعف با حساب میشه میگه خیری دنیای فلان آخرت بگیرید گیرم پدر تو بود فاضل لفظ پدر تو را چه اون خدا با حساب میکن خیلی من نمیدونم ولی چیزی میگم این قانونی نیست یعنی نه قانون نه چیزی واقعا خیلی از این انوال شما باید مصادره شد جده کنم هیچ مشکلی هم نداره قانون شرعی شو من نه ند... ند... قضاات شرعی ک اصلا نمی‌کنم اما قانونیشم میخوام میگم چرا چون تاشپ باز بکنیم مثلا یه دیویس تومن داری 190 تومنش رو کن ازت گرفتن از کجا آوردی جای دوری نمیره رفته به بیت المال شیخانه خانه از زمان بیت المال مسلمین رفته خرج مسلمین میشه برای آخرتتون خوبه خیلی آقا مو وزیر داشتیم تو هم دولت قبل چند هزار میلیارد ثروت خودت کجا آوردی دو دوستا شرطه بیا بشینه بیا حسابرسی بیاد اونجا بگه تو چجوری من الان نشستم دونه دونه عدد ها رو گفتم هر کسی دیگه بیاد بشینه راحت میگم چون هیچ می چی ندونم پنهان راحت تلفو میزنم که شما می پوسوخ چی چیکار کردی کدوم رانتی بود یا نه با گنجی پیدا کردی چجوری میشه هزار چند هزار میره تو صبح تا بشه زحمت میکشیدی با پول مطب اینجوری درآوردی ساعتی چند داره حساب کردی ساعتی چند حساب کردی خب واقعیتش اینو باید... خیلی مقالات علمی خیلی عجب قریبه هم تو تعداد دارن و یعنی بله. که که دانشگاهی آره کار کردن میدونم مقالاتی که من به سربازی دارم میدونی چیه الان اومدن چی کار کردن الان مثلا شما اگر نخبه محسوب بشید چیز داردیگه مافیت دارید درسته بره. خب الان مقالات چند توانه پولش که دیگه داد میزنم نه نه نه نه. از هفتاد امتیاز چقدر نخبه شروع میشه صد و چقدر بگی 120 امتیاز ام. خب 120 امتیاز. بعد الان معقولات چند امتیاز داره؟ عادیه بس اینو و این چیزاشو داره مثلا خب از چند امتیاز شروع میشه دیگه از همین فکر کنم 7 8 شروع بشه 20 امتیاز نه طرف پول داره آقا یه میلیارد تومان میذاره <تصفح> 140 امتیاز کسب نخبه نخبه میشه, نخبه میشه. مشکل. شما مسئول بودی کار کردی خدا پدرت تو تجربه کردی کلی پولم درآوردی؟ کلی مقالهم چاپ کردی. آره. لامصب چهجوری تو 60 67 و... ساعت تو یه روز کار کردی؟ چیزی که تو زیستی شبانه روز چند ساعت؟ را. آره، ز... زمان اینو کش دادن. واقعا نمیشه دیگه. واقعا میشه. ببین یه روزایی بود دکتر من توی بعضی از جلسات یه حرفی می‌زدم. چون چه؟ موهای که سخن رو, رو چهره چهره‌ها حساسه. یعنی یافه ی طرف میفهمی چقدر این حرف به دلش نشسته میدم یه حرف مثلا حق خوب عقلی کل دنیا پسنجه اینا سه ما میره تو هم بعد او فهمیدم بابا اینا همه شون یه اینجوری دارن شما که دست میزنی داده ده نفرشون داره آره میگه آیو عبالف میخواد چگار کنه بابا میخواد کنه خب یک روزی مود به اساطیت دانشگاه یجا دعوت کرده بودن بعد مشوخی من اونجا باشون کردم یکیشون یکیمون به قولی کتاب نوشته بود آورد کتابش رو داد کتابو که گرفتن اینا همین کتابو گرفته اینجوری پر اینجوری دادن این آره جوری. من خندیدم گفتم کتاب آدم میخواد نگاه کنه فهرستش باز میکنه ده. اما اول میذ چرا این کار کردید گفتن چرا گفتم این ناخوشاگاهتونه این میخواد ببینید انقدر کتاب با پاکت گرفتید میخواد ببینید نم پاکت داره یا نه <تصفح> شرطیشه بعد یه صحبت چیز شد تو اسکی مثلا بچه‌ای نمیدونم کی یه چلوه میگم مثلا یکی میگه طرف خیلی سوپر ازبولایی آره بچه‌ها فرستادم ایتالیا اونجا معماری بخونه اون یکی میگونه فرستادم کجا نمیدونم چی بخونه که اصلا نگو کردم میگم قولم ما چهار نفرین فقط اون دو خب نه همش اینور اونورن بعد میتونی برای این مردم نسخه مقاومت بپیچی تو زن و بچه‌ات میرن سیسمونی سیسمونیشون اونور میخرن وسایل خونهشون از اونور میخرن دم از کالای ایرانی بزنی ببین شاید بگه این به من ربطه این دیگه نمیگیره نمیگیره ببین الان بچه های رهبر انقلاب افراد مستقلی از ازر شخصیتی یه آدم دیگه است، حساب و کتاب و عذاب و پاداش همه چیش آدم دیگه است. خب ببشین و گفت اگه میخواد بیرد کار اقتصادی این چیز رو انجام بدید خب با من کاره نشته باشد بیا برید شناس نام و اگر میخواید به پدرتون کمک کنید به رهبرتون کمک کنید تا من زندم سراغ این چیزا نارید. خب این یه فضاست من نمیدنم شما هی دم از رهبری و امقلابیگری و نمیدنم این چیزا میزنید چرا این جو جا خودتون شبیه نمیکنید؟ چرا فقط میخواد از ایشون خرج بکنید نه ایشون گفته اختلاف نباشه باش من که خیلی آیدویتون خیلی حرف هست به خاطر چی به خاطر همین کشورمون و این همین... از یه آرامشی باشه نفع قصه منفرد ف... است نه این جریان است نه اون جریان است هیچ کدام یک جریان باید باب بشه همه چی شفاف بشه کی کسی خ... بخدا ما به نگران آخرت نیای خاص کسی خرابکاری بکند نتاواند خاص دزدی کند یه روزی نتاواند دیگه نمیتونه به بنده که هیچ مسئولیتی ندارم اومدم سخنرانی کردم گفتم آقا من شرط زبا جمعیم بودی که خیابون رسالت بالاتر از زندگی نکام تو تا رو ماشینی هم نداشته باشه امین با دستشون بدن یه بار ما مسافرات یکی از این دوستای ما از این ماشین های بزرگ چینی از KMC چیه؟ گوه آقا میخوای بری اونجا که داری میری کوه و کمر و این چیز هست بیایی ماشین خوبی دیگه با ما گرفتیم بعد انقدر به من سخت گذشت تو <تصفيق> رفتیم یه جایی که اصلا از آدم ها دوری ما رفتیم مثلا دی... برای چی به خاطر این که همش اینجوری هندی میموطه خدای قسم نبینه فکر نکنه چرا بیام یه پولو پشت سر خودتو خراب میکن میگم من این رو نخواهم داشت نمیرا حالا فرض یه روز بخوام این کارو بکنم دیگه نمیتونم من برم بولوشی از زندگی کنم میام همسایه‌م بگم تو نموندی منم خب فلوی پوستری نون خراب کنم همین الان شما ببینید واقعا اگه شفافیت تمام شده بود کارش این دعوا درست میشود این شمارش آرا با این کسافتکاری درمی اومد نه من سرجوش میشیش دکمش میشد با افتخار دلایل داره میگه آقا من به این دلیل با دکتر قالیباف رفتم توضیح میده به مخاطب بعدش هزار جور حرف و حدیث هست این اینا رو واقعا نمیشه توضیح بدم بعضی از این کارمندای مجلس بپرسید توی دورهای چه اتفاقاتی افتاده بود خرید و فروش اتفاق افتاده بود نرخ داشت ما یه تق تفاوز چی میشه؟ ببینید مثلا تق تفاوز از شهرداری تهران رئیس یه تق تفاوز اصلاح طلب یزده مصاحبه سخنگوی قوه قضایی هست که ایشون بازداش شده و از اون طرف این خبر هم هست که تختفاز از شهرداری لغو شده چی اون پشت رد بدل شده؟ اگر میخواید جلو فساد اینجا همهش میشه مثال مثال مثال مستاخ اصلا بدم هست نمید گفت بشه فضا آلوده میشه میخواید حل بشه یک بار بر همیشه همهش رو شفاف کنید یک طرف خیلیش راحتی این رأی من این چجوری همین الان شما در کلی سآل از بند پرسی خ زینهداری اینجا بودم که تو که اون میخوام رابرم یا دو دشمن کرده یه دو دشمن تر کرده یه دوست کرده اینا درست شما این همد مدرسه ما که حقوق از این بهطورمالله می این کار داریم انجام ببدیم شما وظیفه رو به انجام بدی شما باید انجام بدی شما وکیل مردمی مردم به رای دادن که بفهمند داری چیگاه میکنی در استخدام مردمی در استخدام مردمی خب ا مردم ناراحتن ببینید تو جریان اومنا انقدر این جریان اومنا در موردای قالیباف تند بود خب ما که اومنا نبودیم ما جدا بودیم لیست من اشتراکاتی هم داشت اگر قرار بود یکی بشی یه لیست میدادیم اختلافات داشتیم با هم سر بحث از افراد اختلاف داشتیم خیلی هم جدی و ریشه‌ای و مبنایی و گفتمانی بود اصلا ما کوتاه نیومدیم یه بحثای ناراحت‌جویی هم شد گرفت من میگزارم بیر سال‌ها بعدش عادت صحبت کرد که من به شما بگم هیچ مجموعه ای به اندازه ما گفتمانی و صادقانه و مبتنی بر حق حقیقت تصمیم نگرفت فقط دارم یاد میگم خب نحره شما عرض بکنم که اصلا سوالاتی که مثلا تو ببین مجموعه امن و یاران بود رزماء بود و شریان بود مصوبرون خودمون بود خب اینها مصاحبه انجام میدادن مثلا که سوالاتی که آیا دکتر الله کرم می پرسید از مجموع رز ما که آقا شما به غالبا فرای میدی یا نه با مجلس. درست یا نه اصلا شرط شما بود طرف میگفت رای میدید اصلا راج نمیدادن شرط جز شروطون مجموعه بود خیلی هم جدی بود مسئله آقای سراج که دور روبر تو لیست ما بود دور دوم تو لیست ما دیگه نبود اما توی لیست اومن بود و تولیست شانا هم رفت عجیب بود. ایشون درمان دایقالی با فصله که تو مجموع عمانا، ایشون اومده بالا بعد به یک باره چی شده الان مصاحبه که کرده آقای این حرفایی درمان دایقالی با زده میشه در سر حسادته نمیدونم فلانه نمیدونم به همان نمیدونم چی همین آقای رسایی رفت و آقای سراج گفته بود که این رعی که مردم به دادن حرومه که شما گفته نه اونم یه بخش از این سال هست شده نمیدونم اینجوری شده سوالو اینجوری کردن اونجوری کردن ما به کار ندالیم ببین مردم ببین اینجوری فضای دیگه بالاخره شبنوقه به وجود میاد دیگه یک بار برادر من مردم با این یه گروهی اینو به یه نفری از اصلاح طلب‌ها را رنگ میدن که گفتم من اصلاح طلبی رو پیش ببر دیگه در مورد برجام اینه در مورد موتیزیسم اینه در مورد منام اینه در ترسیانت اینه بعد شما برو یه جوری عمل کنی خب میرفتی از همون جامعه رأی, رای می گرفتی. چرا اومدی اینجا رو اشخال کردی؟ اینا غیر اخلاقی از نظر بنده مردم انتظار دارن مرهای شفافیت ساختاری ولی خود مجلس هم باید پیشکان بشه ام. ما توی همان تعهدنامه گفتیم که اگه شما تا روزی که اگه مجلس رو انداخت که اگه نشد ما تو سب ایران هم. الان میگیم اگه ما بذاریم رایار تو سب ایران میگن نه نه نه مجلس رو خود را بننازه هی منتظری میب هی امروز فردا امروز فردا مردم هی آقا چی شد چرا رایارو چه میگن بابا خودشون گفتن ما میذاریم ما میترسیم چردم کن بیا اینا شروع کردن آ این رایفی پور چه کاره است آیا برای خودش یک رئیس مجلس خودش را میداند شروع میکنه از حرف زدن وایم میسی کاری هم نمیکنن الان وظیفه مجلسه چش شوردندش نرم باید اورا شفاف کنه بذاره اینا با همین عنوان رای فیلماشون از همه چیزشون عکساشون چه میدونم سوگندنامه هاشون که کردن حمرم گوشم تو اینترنت نمیتونن بگم ما شروع کنیم یه سایت دیگه بالا آوردنش کاری نداره ما اومدیم داریم مهلت زمانی مشخصی میدید میکشن اون ادمو اونها باید به ما جواب بدن مم. من البته خب یه ددلاینی برای خودمون داریم تا که خب حالا تا الانش که فلکسیبل بوده یکیش اومده والا یه چیز میخوام بگم باز بگن آله یه دو روز دیگه یه دو روز دیگه میگه بابایی به یه نفر بدهکار بود بعد استوبی استوبی نصف بدهکار بودین امروز میگه برو فردا میگور فردا امروز پسرش اومد بعد ما گفتم پول ما رو میدی گفت ببین این تنه درختی که روش گوشت میشه جناب تو شقه میکنم میبینی گور گفت گو این تنه گردوه این بذار تو اون آسفالت اگر این گردو ریشه زد جوانه داد گیلاس شد سیب داد بیا پولتو بگیر یارو یکم نگاه کرد بلنشو رفت فردا باباش اومد و باباش گفتش که حل کردم یاره بود روز میاد اینجا گفت گو چیکار گوی اینجوری بش گفتم بجو که خلاص کردن خوم زیر گوشش گفت گو میزنی گفت اومدیم و این تنه رو گذاشتیم ضبط شد تنیش گیلاس شد سیب داد چرا بود <تصفيق> اما فردا تمون نمیشه خب هر دم هست است الیقات اینا هم همینجوری هر فردو فردو دارن میکنن حالا ما یه ددلاین خودمون نواس کردیم یه بخشش هم به کاره فنی خودمون برمیگرده دوستم ندیم ما دوست داریم ببینید دوست نداریم به عنوان بخشی از مردم بریم این چیزا تو حلقوم حاکمیت بیرون بکشیم و به زور از مجلس بگیریم این پیام خوبی نداره اما نگاه اقناعیه اینجا هم. این پیام خوبی نداره برای مردم من اینجا دلم به دولت و حکومت و مجلس و اینا خودت شیرین این کارو انجام بده بگن این هدیه‌ایه من سر سربازیام با فردا من از اون ستادکنی مثلا گفتم ببین نگاه سلشکر باقری تو این زمینه هوشمندانه مدرن جدید خوب و مردمیه خب این که کش پیدا کنه کش پیدا کنه فردا ب... شما هم انجام بدید میگن نه, نه، ترس مردم انجام بده فشار من فشار بعد شما مردم چیکار میکنی شرطی میکنی میگه تو فشار آفر آفرین فهم میگین برای هر کاری دیگه میتونین اینجوری ندید اشتباهه دیگه اینا. واقعا خطای راهبردی و حکمرانیه این نگاه گفتمانتون چون حساب سر جمهوری هم است چون چهسوب ایران بله خیلی اوضاع خرابه اصلا بحث دوراهی نیستن الان چهارراه <تصفح> خب واقعا سر چهارراه <تصفح> یک بخشی ببینید نگاه کنیم مثال براتون بزنم ما بخشی از این برادرانمون هستن که مثلا تو مجلس هم ماجرا بود دیگه با اینا ما اختلاف گفتمانی از نظر مثلا انقلابیاری و غیر انقلابیاری اون رو ها مثلا داشتیم اما نگاه اقتصادیش درست بین بحرینی نگاه اقتصادیشون قبول دارم بیشتر زنگ زدم شب انتخابات گفتم آذرام شما روزم تو لیستم از یه طرف شما چی هر یه نفر از اون شانهایا میوردین این طرف قطعا طرف قبول میشد دیگه میرفتو هر چی تعداد اونا بیشتر شد اونا پوزشو میدادن ببین با این ازم بپرسید چرا شما 16 نفر میتونید بری دور دوم چرا 13 نفر دادید این 13 نفر که ما دادیم سه نفر چی شد احتمال اینکه این نفر دیگه رای بیشتر شد اشکال نداره من گفتم منم نشم نبامم بین اینها رو باید گرفت یعنی بین اون کارآمدی و این های گفتمانی ام. و میت که آقا یه گفتمان مقاوله و فساد داریم میگه آقا هر کسی باید بیاریم یا باید بیه خوشو شفاف کنه طرف میگه ما آدم خوبی هم. واقعا آدم خوبی نگاه خیلی خوب اقتصاد داره دوست نداره شفاف کنه خوشو و چیکار کنی شما چرا ولعبات بندی کنه دیگه میگه من فعلا شفافیت مبنا قرار ندیم این بیسه و اینا این زیر ساختیه آره حال روی تره این اتفاق بفتن الان هم توی کشور خب ببینید چند تا گروه و جریان هستن که کاره خوب روزه حل مسئله انجام دادن میدونم خب می‌بینید این خوبی طرفه بازی یک جا دیگه ممکنی خلایی داشته باشه تو چی؟ آره. انتخاب پدیده انتخابات ناظر بر مقبولیت هست م. باید بخان درسته؟ شما فرض بکنید یه بچه نهخوا خب یه مردم بچه مقایسه کنم نه صرفا یه مثال یه نفر برداری بیا مثلا یه بچه جلش یه دونه مثلا چه میدونم به وسیله خیلی کامپیوتری یه دستگاه غنیسازی هستا یه بزار خب اون تلف یه دو شرخه بزارین این بچه می دو سخر برداره یکی هم میدون بر میری می می آب گم نمیشه اون به دردش میخوره به ض خودش. یک موقع است بالاخره شما مقبول این آدم باشی شما بخونید خب یا فرصتی اینو داری خیلی خوب رسانه‌ای کنی خودتو خب معرفی کنی و برای همین میگم میگم که یه کاری کنیم که این مردم رو رشد بدیم مردم بعد یه چند وقته اینو برمی‌دارن چیکار می‌کنن میان با خودشون میگن که خدمت شما رز بشم اشتباهی کردیم ما یکی می‌نیویسه رو تخته سیا مار یکی می‌نیویسه عکس مار می‌کشه طرف میاد یا میگه آقا من بیام دلار می‌کنم 5000 کلام مرد می می نهید یه زمانی آکرومات گفت من 5000 تومن پول میدم بله. باطرتون از 84 رو دی 5000 تونه اون موقع خیلی پول بوده ها یعنی دلار 900 تومن بود چقد 2000 تومن بود اینجوری تو ذهنه خب بعد ببین چقدر؟ 6 برابرش کنه شما این یعنی 3 میلیون تومن الان مثلا به هر نفر خب مردم میگن اوه واقعا اینو کار میکنه چقدر این شدنیه مناوبش تعمیرش شد. از کجا تامین میشه خب اصلا بیا شما هم چیه. خلق نقدینه کنید رو بدی بعد از وقت خب موجود تورم تبر... میشون اعمالیان همین افت میکنیم یک پایین بیاییم مردم رو روش بدیم یه عده هستن برنامه دارن نمیدونم خدمت شما مقبولیت نداره یکی از مثلا یه مقبولیتی داره برنامه نداره خب یه خورد کار واقعا سخت شده و ما فعلا استادیم تا این چه کسای تایید میشن چه کسای شرکت میکنن تایید میشن و ناظر باز به خیرال آها. اما مم. پس حتما کاندیدا معرفیم و راه برده های کشور، کلان مم. کشور. بالاخره ما اون اصل اون بالا اون این که ما یه ارتقا به نملعلی الان پیدا کریم نه بدو افت کنیم بیت این بعد اینجاست استیبل بشیم، باید بمونه، بعد مسئله معیشت هم مسئله اصلی کشور. اینا هم باید بتونیم حلش بکنیم. این الان ما دوستانی بودن تو لیست ما بودن. آدمو تو لیست مخالفم بوده. ازاد اقتصادی از حرفو درسته. منم میدونم. اما گفتم بعد اینجوا اهمومه چه قرار میدم. گفته گفتیم شفافیت بعد تو مرحله دوم الان چیکار میکنیم الان ما داریم با نمایندای محترم صحبت میکنیم حرف میزنیم، خدمت شما عرض میکنم لیست خودتون همه نما نه فعلا لیست خب که آقا بهتره کنشگری چی باشه من بنام دخالت نیست نظر مردم بهشون انتقال میدیم سر همین رئیس مجلس گفتیم ببینید اینا مردم چی دارن میگن خب ما منتشر کنیم رایارو شروع کنیم یو اون سامانه مجلس میخواد بیاد خودتون میخواد بذارید رو کانالاتون رو پیج چیکار باید بکنیم دوست نداریم خدای ناکرده نماینده فکر کنه که یه چه میدونم یه تنابی بهش وصل آره. دستوری شعن نماینده نیست ما میخوایم نماینده راحت تر کارش انجام بده برای ریاست جمهوری پس منتظر بزار ببینیم شرایط چی میکنم. میشه بله اما خب شرایط خیلی پیچیده است اصلا کلی آدم 4 میلیونی داریم منتظر ارثیارم که بین 8492 ترکیبی از 8493 به کسی توصیه نکردید که برو کاندیداشو که ازت تمایت کنید خدمت شما ارث کنم من توصیه هم اگر قرارد به کسی باشه به دو نفر فقط بود یکی به آی حاجیزاده یکی به آیت الله عرافی برای چی؟ به خاطر ای که این روحیه جمع کنندگیشون میتونستن جمع کنن نگاه تحولی دو بزرگار شاید بگید مثلا آی حاج بلجاری یه زمانی میش برای وزارت سمت رفته بودن تو دولت های رییسی بهشون گفته بودن سلامی ظاهرن صحبت کردن با رییسی خب ایشون گفته بود آقا من سربازم بگم بعد من تا اون موقع به من نگفتن من, من من مخالفت میکردم من خبر بعدم فهمیدم بعد هم ریاست جمهوری قسمتش فرق قصهش کرد چرا به چند تا دلیل دلیلیم توضیح ده. اولا شاید بگید نظامی هن. باش ژنرال دوگور من نظامی نبود در آمریکا نظامی نشده شد. این یک دو احتمال اینکه که رأی بالایی هم بود خب این که پیامی که همون کسی که اون عملیات بزرگ علیه سهی نیستا کرده میاد م... ببینید منصوب نیست منتخب مردم ایرانی پیام جهانی داشت. مسئله سپاه با سپاه بایشون کار میکن مجلس بایشون با کار میکن این مهمه کسی که شما انتخاب میکنه فردا باید باش همکاری بکنن باید آره عذیتش نکنن اون بعد تجربه تحولی داشتن اون مجموعه که بودن متحول کردن اونجا رو نبودشون به اونجا آسیبی نمیزنه اونجا دیگه رو ریل افتاده خودشونم میگه, میگه منم نباشم اینجا کار پیش میره اما اینجا ما هر کسی رو نمیتونیم بگذاریم مستثری برای این عرض میکنم یعنی هم ناظر به مقبولیت هم بلاخره آدم گفتمانیه یه جای مردم یه هایی از و شبیه جام تیفی از این تیف نوری اینجوری منظوره. علاوه از حاج قاسم داریشون میبینه. یعنی قهرمان ملی میدوننش. هر جا جمهوری خواسته انتقام بگیره از دشمنانش موشک توش بوده. یعنی ایشون مسئولین نظامی فرض کل قوا ستاد کل نیرو مسلح چه چه اینا دست میگیره. اما بالاخره ناظر به بخشی بودی که ایشون فرماندهی داشته می کرد. به نژین جهاد میام. آیت الله لعروفی در حوزه علمیه ایشون اول به 100 120 کشور دنیا سفر کرده. زبان بلده یعنی با دو... دنیا رو میشنسه مم. یک آلم به تمام معنا در آستانه مرجعیتیشون بعد خدمتون از بکنم در جامعه طلم و مجموعه در حوزه علمی تو حوضه علمی کار کردن خیلی سخته اصلا ساده نیست یعنی این حرکت کردن چه مثل میدونه مینه چون با شریعت مردم دارد احساسیت خیلی احساسیت رو بالاست خب تو اونجا شما بیاین این کارهای بزرگو انجام بدید جماعتون مصافا تاسیس بکنید هم چه تاسیس کار سختیه خب یعنی این نبوده که بگیم آقا بریم مثلا یه حاجی رئیس روحانی بود یه روحانی برداریم بیاریم نه ببین من اینجا دارم میگم آیه حاجی زاده رو میگم مطلبه عرافی خیلی اینا تفاوت دارن در ظاهرت درقل نظامی و روحانی این تیپ آدما حالا من شاید بگید یه نفر به ذهن شما برسه بزنه من نرسیده باشه اما بقول ما گشتم نبود نگرد نیست خب که بالاخره ناظر به انتخاب شدنم هست مقبولیتم باید باشه لا یه نفر بیا ارزا کنی مردم انتخاب نکنه به چه در میخوره بله. ممنونم از که سلامت که وقت گذاشتید ممنونم از شما بینم دگان عزیز خدا گهتر